ایرال اسرائیل در کتاب کروش بزرگ به تاریخ سرزمین های پراوازه دوران باستان به ویژه ایران پرداخته و سرگذشته پادشاه محبوب ایرانیان کورش و کبیر رو هم تحلیل کرده. دوران پادشاهی ایران باستان همواره یکی از بخشهای جذاب و جالب برای ایرانیان هست و کورش بزرگ به عنوان محبوب ترین و تأثیر گذار ترین پادشاه در زمان سلطنت خودش از سرگذشته مهمی برخوردار بوده و کارنامه اون قابل بررسیه کتاب کروش بزرگ از جمله آثار تاریخی هست که نویسنده اون تلاش کرده بدون هیچ سوگیری و جانبداری به شرح این بره از تاریخ بپردازه و از منابع دست اول و معتبر استفاده میکنه ژرار اسرائیل علاوه بر شرح دوران ایران باستان و نقش کروش در منطقه بین و نهرین به تاریخ امپراتوری آشور، مصر فرائنه، پادشاهی بابل هم میپردازه چرا که این مناطق در اون زمان بخشی از قلم روی پادشاهی حقامنشیان بوده و هر یک تأثیری ویژه بر مناسبات منطقه داشتند. به طور کلی میشه محورهای اساسی کتاب کوروش بزرگ را در سه بخش تقسیم بندی کرد. حکومت شاهان آشور و بابل، به قدرت رسیدن کوروش و حمله اسکندر مقدونی به ایران و ملاقات اون با سنگ نوشته و اگر موافق باشید بشنویم کتاب صوتی کوروش بزرگ کاری از نشر قغنوس و نوار به نویسندگی جرار اسرائیل و با صدای تایماز رزوانی اول به نام خدای آشور شهر نینوا پایتخت مغرور امپراتوری آشور عظمت خود را بر کرانهای سیمین سیمینفام دجله گسترده بود و مقر قدرتی سرکوبگر محسوب میشد. و شهر بابل واقع در ساحل فرات قلب تمدن درخشانی بود با تمام آتشها، برج‌های سر به کشیده، معابد کاخها، باغها و همه همه زندگی مردمانی که در حسرت عظمت گذشته در آن گرد آمده بودند شهر دیگری نیز به نام اورشلیم وجود داشت که بر قله‌های های یهودی جای گرفته بود منزلگاه خداوند یکتا بود که قومی ویژه به آن ایمان داشتند از پیامبر معابی ها و پیشگوی های عجیب تقضیه می و در میان ملل مشرق زمین یک استثنا محسوب می شدند. چه امپراتوری شگفتی بود آشور در قرن هفتم قبل از میلاد مرزهای آن از سواحل مدیترانه تا خلیج فارس گسترده بود بخشی از بیابان عربستان را در اختیار داشت به مصر فرائنه رسیده بود های ارمنستان را لمس میکرد به های دریایی که امروزه خزر میگویند نزدیک شده بود و سرحدات راههای مرکز آسیا و فلات ایران را قطع میکرد درون این سرزمین پهناور در ساحل فراد شهر بابل قرار داشت که در عین حال روح و قلب امپراتوری سابق عکد محسوب میشد این شهر در آن زمان مطیع و اسیر بود ولی پرتوهای معنوی قروری سرکش پیوسته از آن ارسال میشد در سال 688 به جز مصر که پایتخت آن منفیس زمان کوتاهی در اشغال آشوریان اثرهدون بود و چند قبیله ماد و پارس که بدون ارتش سازمانی یافته و نیروی مقاومت در کویر ایران رها شده بودند، امپراتوری آشور تحت اقتدار مطلق آشوربانیپال پال نوی سن بر تمام منطقه مسلط بود. اراده قدرت آشور که طبیعتی سیاسی و اقتصادی داشت تحت فرمان مطلق خدای آشور بود، خدای ملی و جهانی. خدمت به او سرنوشت آشوریان را در سراسر سرزمین رقم میزد. نخستین وظیفه شاهان، کاهنان و مدیران آشور، گسترش هر بیشتر قلمرو امپراتوری بود. مراسم تاجگذاری شاه هر تردیدی را در این زمینه از بین میبرد. شاه آینده باید سوگند می‌خورد که مرزهای امپراتوری را بیشتر بگسترد و پس از هر لشکرکشی تحت امر خدای آشور، گزارش موفقیتها، و برنامه لشکرکشی های آینده را به منظور گسترش مرزها به او بدهد در نتیجه ایدئولوژی این امپراتوری مبتنی بر جهاد و جنگ جنگجویی بود وقتی ملتی مغلوب میشد و تن به انقیاد آشور میداد دیگر حق ایفای هیچ نقش سیاسی را نداشت یا باید همگی سر اطاعت فرود می آوردند یا تن به نابودی بسپارند خدایانشان هم باید نابود یا منتقل میشد فرمان برداری باید کامل می بود مگر تیگلاد پیلسر اول یکی از نخستین شاهان امپراتوری در سال 1100 پس از اولین باری که بابل را تحت سلطه درآورد اعلام نکرد که سرزمین ها را با ویران ها خواهم پوشاند زمین را از اجساد خواهم انباشت چنان که جانوران درنده چنین می کنند شهرها را به آتش خواهم کشید خراب و ویران می کنم توده توده ویرانی و آوار باقی خواهم گذاشت یوقه خود را برگردن آنها خواهم نهاد و در برابر ایشان به ستایش خدای آشور سرور خود خواهم پرداخت. تمایل به انهدام و تسلط هیچ جایی برای صلح باقی نمی گذاشت. امپراتوری آشور شاید هرگز با هیچ قدرتی به جز بابل در زمان اثرهدون حدود سال 670 اهنامه برابری امضا نکرد و هیچ اتحادی را نپذیرفت. فقط میخواست به لطف خدای خود بر سراسر سرزمین حاکم باشد این رژیم رعباور دائمی به طب هیچ علاقه ای در اقوامی که زیر یوغ آن میزیستند ایجاد نمی‌کرد. آشور طی قرنها و به در اوج قدرت خود در 7 هفتم جز در حالت دشمن تراشی به سر نمی برد. در همه جا و به در سرحدات امپراتوری به طور پراکند کانونهای مقاومت پدید آمده بود نیروهای آشوری که بسیار عالی سازمان یافته و از وحدت ملی حقیقی برخوردار بودند، در برابر این مقاومتها پیوسته فرسوده تر می شدند و چاره جز توسطل به خشونتهای وحشیانه تر نمی دیدند. در این شرایط، ارتش نهاد مرکزی امپراتوری محسوب می شد. در زمان سنخاریب، این ارتش نوسازی شده بود، کمان که اقوام سامی استفاده از آن را عمومیت بخشیده بودند و عرابه جنگی تبدیل به سلاحهای اصلی شدند. با این حال به فرماندهان ارتش اجازه نمی دادند، به کاست نظامی تبدیل شوند تا با کسب اشرافیت برای فرمان روا خطر ایجاد کنند. هیچ اشراف زاده ای در اطراف شاه آشور وجود نداشت. فقط انجام وظیفه مقدمات دستیابی به قدرت را آن هم به طور محدود فراهم میکرد. فرماندهان نظامی و مدیران کشور پیوسته منصوب و معزول می میشدند و اگر در برخی مواقع عنوانی کسب می کردند، ناپایداری قدرت پیوسته به ایشان یادآوری میشد. فقط شاه قدرت داشت. چون او یگان کسی بود که اراده خدای آشور را می شناخت و می توانست آن را محقق کند. برای مثال، هنگام تاجگزاری آشوربانی پال جوان در 669 عظمت سلطنت و خصلت مطلقه آن در این عبارات برای مردم متی تشریح شده است. او شاه و سرور شما خواهد بود. او می تواند فرادست را فروده است و فروده است را فرادست سازد. کسی را که سزاوار آن است به مرگ محکوم سازد و هر کس را که بخواهد ببخشاید. شما به هرچه چه او بگوید گوش خواهید کرد و هرچه چه فرمان دهد انجام خواهید داد شما هیچ شاه و سرور دیگری را علیه او بر نخواهید انگیخت چنان که از سرود جنگی زیر که سنخاری هنگام حمله ای از بالای عرابه خود می برمیآید شاه فرمانده تمام سپاهیان و از این امر بسیار خوشنود بود من برای نورد تاج بر سر میگذارم. شادمان سوار عرابه هلناک خود میشوم در حالی که نابودگر دشمنان هستم و قلبم سوزان و تشنه انتقام است کمان نیرومندی را که خدای آشور به من داده است در دست میگیرم و در میان انگشتانم گرز مرگافرین را میفشارم علیه تمام سپاهیان رسوای شورشی دلیرانه و شکوهمندان میجنگم بابلیان با نقض نهانی توافقنامه ها در جنوب امپراتوری شاهان آشوری را که خواهان اتحاد با کشور کلده بودند، می آزردند. البته منظور اتحاد و برابری واقعی نبود، بلکه مسئله نوعی تحت حمایت بودن با قبول تسلط آشور بود. بعضی عناصر ارتش آشور آرزو داشتند که پا را از این حد فراتر بگذارند و بابل را نابود کنند. اما به در دربار مردان بسیاری مجذوب بابل سازمان فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای اقتصادی و پویایی آن بودند در زمینه مذهبی نیز رقابت میان خدای آشور و خدای اصلی بابل یعنی مردوک باعث تنش‌هایی میشد حتی اگر افراد طبقه روحانی خدای بابل را با دیدی محترمانه مینگریستند و در سلسله مراتب خدایان نوعی برتری برای آن قائل بودند در این حال خدای آشور را خدای ملی می‌دانستند که قدرت آشور، پیروزی‌ها و عظمت آن از او سرچشمه می‌گرفت. پدر سنخاریب، سارگون دوم مخوف از خطر بابل به خوبی آگاه بود. همو بود که شاه مردوک بلدن را که از نژاد آرامی بود از سلطنت خل کرد و بی آنکه پایتختش را ویران کند، ایالت جنوبی را در اختیارش گذاشت. پس از مرگ سارگون دوم در 705 و هنگامی که سنخاریب بر تخت سلطنت جلوز کرد، مردوک بلدن بر آن شد تا دوباره در بابل قدرت را به دست گیرد. شاه مخلوع شورشی در صدد اتحاد با شاه یهودی حزقییا برآمد. زیرا چند سال پیش از کاخ اورشلیم و خزاین موجود در آن دیدار کرده بود، اما یهودیان که بیمناک سرنوشتی بودند که ممکن بود شاه آشور برای پادشاهی اسرائیل پیش بیاورد و به خصوص به دلیل پیشگویی‌های اشعیا های نبی از اتحاد با بابل خودداری کردند چون اشیای نبی قبلا به آنها هشدار داده بود کلام یهوه سبایوت را بشنو اینک روزهایی میآید که هر چند در خانه توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کرده اند به بابل برده خواهد شد. و خداوند میگوید که چیزی از آنها باقی نخواهد ماند و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خاج خواهند شد. سرانجام در سال 703 سنخاریب خاریب مردوک بلدن را به مبارزه تلبید و بابل گستاخ و دلیر را مقهور خیش کرد. پادشاه آشور سرمست از این پیروزی خبر انهدام شهر کلدانیان را برای نیای خود چنین توصیف کرد شهر و معابد را از پی تا بام در هم کوبیدم ویران کردم و با آتش سوزاندم دیوار بارو و نمازخانه های خدایان هرم‌های آجوری و گلی را در هم کوبیدم و آبراه بزرگ را از ریزهای آنها انباشتم سپس سنخاریب اقوام گوناگونی را که بین فراد و قله زاگرس میزیستند زیستند مقهور خود کرد به شاه سور حمله برد و به سوی مصر سرازیر شد در راه به یاد حوسهای حزقیا در مورد اتحاد با دشمنان آشور افتاد بر آن شد تا اورشلیم را تسخیر کند و در سال 701 به لشکرکشی علیه پادشاه یهودیه پرداخت که قدرت نظامی نیرومندی نداشت ولی با افکار دسیسه باز خود به بابل نزدیک شده بود فرار سنخاریب سنخاریب فکر میکرد که باید تمام پیروان موسی، اسرائیلیان و یهودیان به علت فتنجویی و به ویژه به این دلیل که جاده مصر از سرزمین های ساحلی آنها میگذشت مطیع او باشند او اهمیتی را که پدرش سارگون دوم برای انهدام قلم اسرائیل که از تبار سلیمان بود قائل میشد از یاد نورده بود. سارگون دوم همواره خود را ویرانگر اسرائیل می خاند. در حقیقت سلف او برادر شاه شلمنسر پنجم پس از یک محاصره سه ساله شهر سامریه را تسخیر کرده بود. سارگون دوم کار او را تکمیل کرد و بیشتر اسرائیلیان را به راقه در دامنی قلعه البرز تبعید کرد. در حالی که بقیه ملت در سراسر شرق آسیا پراکنده شدند. زنخاری با موفقیتی فوری مواجه شد. شهرها یکی پس از دیگری تصرف و سپاهیان نابود شدند. شاه هزغیا خود را در اورشلیم محبوس کرد و به فاتحان قول داد که سیصد تالان نقره و سی تالان طلا که در خزاین سلطنتی و نیز در معبد مقدس در اختیار داشت به آنها بپردازد. صلحی موقتی برقرار شد. دو سال بعد سنخاریب تصمیم گرفت کار خود را با پادشاه یهودیه یک سره کند. زیراحت میزد که وی علیه آشور با شاه مصر به توطعه پرداخته است. شاه آشور سپیک از جمله رئیس ستاد ارتش ارتشخیش را نزد حزقیا فرستاد. آنها با شاه یهودیه به این طریق سخن گفتند. اعتماد خود پرستانه تو به چیست؟ تو حرف میزنی ولی سخنان بیهوده میگویی و در تدارک جنگی هستی برای شوریدن علیه من به چه کسی اعتماد می کنی؟ رئیس ستاد ارتش مصریان را به یک نی شکسته تشبیه کرد که دستی را که به آن تکیه دهد مجروح می کند فرستاده دیگر سنخاریب که شرابدار سلطنتی بود به زبان عبری سخن گفت تا همه مردم بفهمند پادشاه آشور چنین میگوید حزقیا شما را فریب ندهد زیرا که شما را نمیتواند رهانید و حزقیا شما را بر یهوه مطمئن نسازد و نگوید که یهوه البته ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد به حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنین میگوید با من صلح کنید و نزد من بیرون آیی تا هر کس از موی خود و هر کس از انجیر خود بخورد و هر کس از آب چشمه خود بنوشد تا بیایم و شما را به زمینی مانند زمین خودتان بیاورم، یعنی به زمین قله و شیره و زمین نان و تاکستان ها. مبادا حزقی شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانید. آیا هیچ کدام از خدایان امتها زمین خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟ این سخنان نتیجه مورد انتظار را به بار نیاوردند، با این حال سنخاری بران شد تا به مصر لشکر کشی کند و به همین راضی شد که هنگام عبور از نزدیکی اورشلیم آن شهر را در محاصره بگیرد. سنخاری به رغم دوستی نزدیک خود با خدای آشور، ملک سراسر جهان الهی، خالق خود، پدر خدایان، پادشاه زمین و آسمان، سرور تمام خدایان، تعیین کنندی سرنوشت، به رغم تعداد معابد ای که با قدرت سپاه خود نابود کرده بود و با وجود اطمینانی که به فرستادی ارتشهای خود داشت هرگز با امر خارق العاده و شگفتی برخورد نکرد. با توجه به اوضاع و احوال و با پشت سرگذاشتن گذاشتن شلیم محاصر شده و رویارویی با حرکت قشون مصر بخت بزرگ سلطنت به او روی آورد. ستوس شاه مصر را وادار به تسلیم کرد و بدین ترتیب غرور یهودیان را در هم شکست. او به ارتش خود بسیار میبالید. این ارتش از سربازان اجباری نظام وظیفه تشکیل شده بود و سلاح های ثابتی داشت که در اختیار سپاهی از افراد حرفه‌ای بود که سراسر شرق را به وحشت میانداختند. اشیای نبی نیروی سربازان این ارتش را چنین ستوده بود. و ایشان تعجیل نموده به زودی خواهند آمد. و در میان ایشان احدی خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احدی نه پینکی خواهد زد و نخواهد خوابید و کمربند کمر احدی از ایشان باز نشده دوال نعلین احدی گسیخته نخواهد شد كه تیرهای ایشان تیز و تمامی کمانهای ایشان زده شده است سمهای اسبان ایشان مثل سنگ خارا و چرخهای ایشان مثل گردباد شمرده خواهد شد قررش ایشان مثل شیر ماده و مانند شیر ژیان قررش خواهند کرد و ایشان نعره خواهند زد و سید را گرفته به سلامتی خواهند برد و رهانندهی نخواهد بود شاه هزقیا در کاخ خود در ارچالیم محاصره شده بیش از هر کس دیگر میدانست که این ارتش که حتی زحمت ویران کردن حصارهای شهر مقدس را به خود نداده بود شکست ناپذیر است و با وجود اینکه اشعیا او را میدید دید که چنین در شهر حرکت می کند رویداد عجیبی را اعلام کرد اشعیا به ایشان گفت به آقای خود چنین گوید که یهوه چنین میفرماید از سخنانی که شنیدی که بندگان پادشاه آشور مرا به دانها کفر گفتند ما همانا روحی بر او میفرستم فرستم که خبری شنیده به ولایت خود برخواهد گشت و او را در ولایت خودش به شمشیر حلاک خواهم ساخت در سال 701 سن از جاده امتداد ساحلی به سوی مصر پیش رفت او تقریبا در ماغه نیل را تسخیر کرد و در آن شب در برابر شهر پلوز اردو زد و با اطمینان مردی جنگی به سرنوشت پیروزمند خیش به خواب رفت نفریادی نکمترین نشانه ای از استراب خواب او را نیاشفت اما در تورات چنین آمده است در همان شب فرشته خداوند به اردوی آشوریان نازل شد و سد و هشتاد هزار مرد از ایشان را بکشت و سنخاریب پادشاه آشوریان با بلند شدن از خواب این همه مرده را دید و بیدرنگ تصمیم گرفت بازگردد. اما حقیقت واقعه را همه دانستند. دو قرن و نیم بعد هرودوت سحنه هولناک دخالت خداوند با حجوم انبوه موشها را چنین حکایت می کند. هزاران موش صحرایی شبانه بر اردوگاه اجانب حمله بردند و ترکش، زه کمان و دسته چرمی سپرهای آنها را جویدند. از این رو، روز دیگر چون نفرات دشمن اسلحه برای جنگ فراهم نداشتند، عقب نشینی کردند و در زم تلفات سنگینی هم دادند. هنوز مجسمه سنگی ستوس در معبد هفستوس موجود است که موشی را در دست دارد و عبارت کتیبه به شرح زیر است. بر من بنگر و شیوه قدردانی و سپاس از خدایان را بیاموز. ستوز، پادشاه مصر که جز چند غیر نظامی، بازرگان و پیشور او را همراهی نمی‌کردند و ارتش او رو به شکست بود این پیروزی بدون جنگ را تفضل خدایانی دانست که بر او آشکار شده بودند. اما محاصره شدگان اورشلیم نیز به خوبی می‌دانستند که این کار فرشتهی از جانب خداوند متعال ایشان بوده است. سنخاریب پلوزیوم را با شتاب ترک گفت. در هنگام بازگشت از محاصری بیشتر اورشلیم چشم پوشید. سپاهیان او از برابر یهودیان که حتی آنها را دنبال نمی کردند می گریختند. در آن زمان شهر یهودیان دست نخورده نجات یافت. سنخاریب با سرعت هرچه تمامتر همراه با دو پسرش آدراملک و شارزر راه نینوا را در پیش گرفت. بدین ترتیب پادشاهی که خود را مورد انایت خدایان بزرگ، شیر دل و شجاع، زبردست، شبان اقوام و حادی انسانها، نیرومند، توانا، هولناک، سرآمد شاهان، جنگجو و کسی که کفار را نابود و گناهکاران را مجازات می کند می راه گریز در پیش گرفت. بدین گونه شاه حزقیا شاهد ناپدید شدن شخصی در افق یهودیه شد که سنت قوم وی، بعدها او را تبر خداوند لقب داد. نینوا پایتخت امپراتوری آشور. برغم فاجعه ای که ارتش او به آن دچار شد، شیوع بیماری تا اون، وقتی به نینوا بازگشت امید خود را باز یافت. او پسر سارگون حیات را به این شهر خدایی که بنیانگذار آن بابلیان بودند و در سال 1300 از سوی شلمنصر یکم بزرگ پایتخت آشور شناخته شده بود بازگرداند. وقتی سنخاریب تصمیم گرفت خود را وقف بازسازی شهر کند، نینوا تقریباً متروک مانده بود. دیوارها و حسارها از هزاران جاشکاف برداشته بود. جویبارها و آبراه های قدیمی قطع شده بودند، اسکله ها و آب رود دجله خراب شده بود و تقیان آب شهر را تهدید میکرد. کاخان نیز به حال ویرانگی افتاده بودند. سنخاریب عملیات بازسازی خود را چنین تشریح می کند. ستونهای بزرگی از مثل که روی شیرهای برنجی قرار میگرفتند دوباره قاللب گیری کردم و درهای ورودی کاخ را آراستم. در چار سوی که باد میوزید، فرشتگان حامی از نقره، مس یا سنگ برپا داشتم. سرانجام، در کنار کاخ بوستان بزرگی برپا کردم که در آن انواع گیاهان و درختان میوه کاشته شده بود. در شهر، میدان‌ها بزرگ شدند، کوچه ها و خیابان ها سنگ فرش گشتند چنان که در روشنایی روز می‌درخشیدند. سنخاریب در پایتخت که دو کاخ دژ خود را در آن ساخته بود، و آبراهی بزرگی برای استفاده ساکنان شهر دران احداث و مرزهای پیرامون شهر را چهار برابر کرده بود پس از لشکرکشی فاجعه علیه مصر و اورشلیم اینچنین خود را تسکین داد شاه آشور با پناه بردن به شهر خود احساس امنیت میکرد. نینوا از سمت شمال غربی با نهر خسر که از دجله سرچشمه گرفت و از سوی شمال شرقی با نهر گومل که از رود زاب سرچشمه میگرفت و با رشته ای از تپه ها که در پناه خسر و دجله قرار داشتند محافظت میشد و شهری نفوذناپذیر مینمود علاوه بر این در حدود سی کیلومتری جنوب شهر دشکاله قرار داشت و در حدود 20 کیلومتری شمال شهر استحکاماتی خرساباد قرار گرفته بود سنخاریب شهر نینوا را که پیشینیان مدتی به آن بی‌توجه بودند به سود آشور بازسازی کرد. نینوا همیشه وقف الهه ایشتار بود. شاه امپراتوری بزرگ خرسند بود که این الهه مهر سرنوشت را بر پیشانی کسی زده است که بر ملتها حکومت می کرد و قرور بی از این امر داشت. من کوچه های قدیمی را بازسازی کردم. کوچه های تنگ را وسعت بخشیدم و شهری را باز آفریدم که چون خورشید می درخشد. در ماهی نیکو، در روزی سرنوشت ساز، من بنابه الهام قلبی خیش، در بالای پیهای استوار کاخی از مرمر سفید و چوب صدر که محصول سوریه بود بنا کردم و با روی آن را به سبک آشوری ساختم. من این کاخ را از پیت ها سر ساختم و تکمیل کردم و سپس نام خود را بر آن نهادم. سنخاریب این هوشمندی را داشت که اجازه ندهد شهر آشور، خدای بابل، که در جنوب دجله بنا شده بود به دست فراموشی سپرده شود او آنجا را شهری جاودانی و مقدس می شناخت چون خدای ملی آشوریان که نام خود و کشورشان را از او عکس کرده بودند در آنجا اقامت داشت معبد آشور با تمام شکوه و عظمت خود در آنجا قرار داشت و شاه آن را حفظ می کرد. اما این پایتخت مذهبی با آنکه میان سه شاخه دجله بنا شده بود در صورت حمله تضمین کافی برای دفاع نداشت آنگاه نینوا که نه به اندازه بابل اسرارآمیز و نه به اندازه اورشلیم خشن بود به اندازه منفیس در مصر یا سارد در لیدی در جنب و جوش بود و از استقلالی بهره داشت که سنخاری از آن لذت می‌برد شهری که در پشت نقاب سرسختی زنده و پرشور بود سنخاریب دلایل کاملی داشت که در نینوا احساس خوشبختی کند و راز شکست خود در پلوزیوم را به فراموشی بسپارد. از سوی دیگر درخواست یا تحریک های جنگی کم نبود. در واقع این جنگ ها باید حمله شوم موش‌ها به ارتش شکست ناپذیر او را از خاطرش میزدود و سنخاریب توانست پیروزی پشت پیروزی به دست آورد. در سال 692، ایلامیان که بابل را اشغال و شاه جدیدی را در آنجا مستقر کرده بودند، خود را مقابل قدرت مرکزی نینوا یافتند و ناچار با پشتیبانی ارتشی مرکب از مردان ایلامی، بابلی و قبایل آرامی، آشور را به مبارزه طلبیدند. پیروزی پسر سارگون در برابر ایشان کامل بود. او سپاهیان حریف را شکست داد، تمام کشور را اشغال کرد و باعث گریز شاه ایلام شد. اما باز ناچار بود بابل را که همیشه آماده ی سرکشی بود تحت انقیاد درآورد او در امتداد جریان پایینی رود دجله در حلول موفقیت ای یافت سپس در سال 689 به سوی پایتخت بابل حرکت کرد و برای دومین بار خاک آن را به توبره کشید با این حال سرنوشت سن خاریب از مدتها پیش رقم زده شده بود یعنی از آن روزی که اشیای نبی قول داده بود شاه آشور به مرگ خونی کشته خواهد شد او در سال 681 هنگامی که در معبت مردوک به نیایش مشغول بود با ضربات شمشیر دو پسرش آدراملک و شارزر همان کسانی که در جنگهای مصر و اورشلیم همراه او بودند به قتل رسید این فرجام کسی بود؟ که در مصر از مرگی شایسته در میان جنگجویان جویان ورزیده بود. آشور بانی پال شاهی که حس تاریخی داشت از میان شاهان آشوری که جانشین سنخاریب شدند، هیچ کس بصیرت کافی نداشت. از لحاظ قدرت و خشونت هیچ کس به جز آشوربانیپال که از 669 تا 630 سلطنت کرد با سارگون و پسر او قابل مقایسه نیست. البته پدر خود او اثرحدون به لحاظ نیرو، پارسایی و هوش نسبت به پیشینیان پادشاه بزرگی بود، اما آشوربانیپال ضمن حفظ سنت سرکوبگرانه و ستمگرانه آشوریان شاید شروع به درک اصر خود کرده بود. او می توانست از آرامش موقتی در مرزها و خرد نسبی اقوام شکست خورده و مقهور برای سازماندهی امپراتوری بر اساس اصولی متفاوت با اصول شاهان جنگجوی پیش از خود استفاده کند. از هدون پسر کوچکترش آشوربانی پال را جانشین خود تعیین کرده بود. به سنت، سلطان می توانست میان پسران خود آنکه را شایسته تر انتخاب کند، در واقع او پسر ارشد خود شمشوم شوم اوکین را که حاکم ایالتهای مهم امپراتوری بود و خود را شاه بابل اعلام کرد کاملا کنار نگذاشت. اما آشور بانی پال نیز برای اثبات اینکه رهبری رهبری جنگیست به فتح مصر که پدرش آغاز کرده بود ادامه داد منفیس را اشغال کرد و سپاهیان خسم را شکست داد. اما شاه جوان نسبت به سنتهایی که شاهان پیشین آشور با آنها توجه داشتند اظهار بیعلاقگی کرده بود او نسبت به شاهزادگان مصری که به رغم شکست در حال شورش بودند مهربانی نشان داد یکی از آنها را به نام نکو ععف کرد و به نینوا فراخواند من به او جامهی الوان خواهم پوشاند و زنجیر طلای خاص سلطنت را بر گردنش خواهم افکند، در انگشتانش حلقه های خواهم کرد و خنجری آهنین بر کمرش خواهم بست که قبضه آن از طلا باشد نامم را بر پشت آن خواهم نوشت و به او خواهم داد به او عرابه با اسبان و قاطران برای مسافرت در قلم هدیه خواهم کرد آشور پال برای قارت شهرهای شکست خورده لحظه تردید نمی‌کرد. او پس از اشغال تبس دومین شهر مصر دو ستون هرمی شکل را که در کنار در معبد بود به سرقت برد. در عوض با بازگرداندن برخی خدایان بابلی که سنخاریب آنها را به نینوا برده بود موافقت کرد. این سیاست توأم هم بزرگواری همراه با شدت عمل، خوشایند بعضی شاهان اطراف واقع شد. مثلا شاه لیدی، گوگس که موسس سلسله مرمنات ها بود، خود را دست نشانده شاه آشور خاند. این نخستین بار بود که یک شاه لیدی به اطاعت از شاه آشور تن می‌داد. برادر بزرگتر آشوربانی پال که روح کینه‌جویی داشت، در رأس اتحادی بزرگ علیه شاه آشور قرار گرفت و از این رو با قبایل متعدد آرامی، ایلامیان و بابلیان متحد شد. اما آشوربانی پال خدای سین، خدای ماه را که نسبت به او لطف داشت، در خواب دید. در سطح ماه نوشته شده بود کسانی که علیه آشور با نیپال شاه آشور بدی کرده و به دشمنی پرداختند، من آنها را به مرگی سخت محکوم می‌کنم. با دشنه از آهن، با ورته آتش، با گرسنگی و قحتی با تا اون زندگی آنها را نابود خواهم کرد. بنابراین، پسر کوچک اثرحدون بیان که تردید کند روانه بابل شد تا به سرکوب شورشیان بپردازد، شمش شوم اکین برادر شورشی که روحش را خدای سین آشفته بود قصر خود را آتش زد و خود در میان شعله های آتش سوخت آشوربانیپال پال بابلیان را بسیار خشن و بیرحمان سرکوب کرد شاه آشور که خیانت ایشان نسبت به پدر بزرگش سن خریب را بیاد داشت دستور داد تعداد بیشماری از بابلیان را قتل عام کنند و سر آنها را برای او هدیه بیاورند مدتی بعد، اشوربانی پال به شوش پایتخت ایلام لشکر کشی کرد. او شهر را ویران و خدایان و الهه ها را همراه با خدمتگزاران مقدس ایشان و ثروتهایشان تبعید کرد. برای محروم کردن مردگان بزرگ ایلام از آرامش ابدی، دستور تجاوز به مقبره آنها را داد. بدین ترتیب کشور ایلام با اراده کسی که میدانست چگونه به خشم ویرانگر اجداد خود برای غلبه بر شورشیان متوصل شود. با خاک یکسان شد ظرف یک ماه تمام ایلام را در هم کوبیدم روستاهای آن را از صدای انسان محروم کردم گاوها و بره را لگت کوب نمودم و شادمانی را از میان برداشتم عجیبان بود که آشور بانیپال با قلم روی یهودیه هیچ مشکلی نداشت تمام منطقه سوریه و فلسطین آرام مانده بود پسر و جانشین حزقیا شاه منسی در برابر آشوریان سیاست اطاعت و همکاری را در پیش گرفت شاه یهودیه که کمابیش داوطلبانه قبلا به نینوا تبعید شده و مدت زیادی را در آنجا گذرانده بود به ظاهر مجذوب های تمدن آشوری بابلی شده بود اورشلیم به نوبه خود رفته رفته اهمیت خود را از دست داد این شهر دیگر در این جهان چند خدایی و بت نقش سازش ناپذیر خود را که قبلا باعث عظمت معنوی آن شده بود، ایفا کرد. نوعی بحران مذهبی شهر داوود را در بر گرفته بود. خدای متعال اورشلیم با علاقه ای اگر نگوییم پرستشی که بسیاری از یهودیان به خدای بیگانه نینوا نشان می‌دادند، محجور مانده بود. مردم آینهای آشوری را پذیرفتند در حالی که منسی نیز موافق عبادت بر روی کوه ها بود و اجازه داد بر فراز آنها بود و محراب بنا کنند شاه یهودی حتی مرتکب عمل نفرت انگیزی شد او تندیس یک خدای بیگانه را وارد معبد سلیمان کرد و بدین گونه برخلاف قانون موسی رفتار کرد که گفته بود تو در برابر من خدایان دیگری نخواهی داشت و تمثالهای دیگری نخواهی ساخت بدین سان تحولاتی انجام گرفت که به آزار و ستم ادواری پیامبران اسرائیل نظیر ناحوم سفنیای نبی و به ویجه نبی انجامید. آشوربانیپال پال بر تمام ملل تابعه قدرت مطلقه و بیرحمانه اعمال می کرد. شورش های بابلیان و ایلامیان در هم شکسته شد. نقش مؤمنان خدای یکدا و متعال در اورشلیم به نقش چاپلوسانی بیوفا به اعتقادات گذشته کاهش یافت لیدی نیز دست نشانده شد. عصر طلایی آشور همه جا را فرا گرفت. نینوا فانوس تمدنی تزلزل ناپذیر و پایتخت جهان و آشور بانی پال امپراتور جهان شرق شد. این شاه حس تاریخی نیز داشت. به لشگر و حضور خود در چار گوشه جهان راضی نبود و نمیخواست خواست نسلهای آینده پیروزیهای او را فراموش کنند. او که میل به تصاحب داشت کل دانش جهان را در نینوا گرد آورد. و اولین کتابخانه تاریخی بزرگ جهان را در پایتخت کشور خود ایجاد کرد که شامل الواه گوناگون بود. رویدادنا های نخست بابل، تاریخ معاصر، قانون نامگذاری ها، نامه یادداشتها، قراردادها، قوانین، اخگویی و طالعبینی، پزشکی، مذاهب، نشانه های طبیعی که از روی آنها آینده را حدس میزدند، شاعر، مظامیر و سرودها، اشعار هماسی کاتبان متعدد که به دقت تربیت شده بودند، متنهای باستانی را نسخه برداری می کردند و به تکمیل و مقایسه آنها با یکدیگر دیگر می پرداختند. پال برای گردآوری نوشته های موجود در امپراتوری پهناور خیش چنان که از نامه زیر به یک نوکر وفادار به نام شادونو پیداست، دستورات اکیدی صادر می کرد. سخنان شاه به شادونو حال من خوب است، باشد که تو نیز خوب باشی. وقتی این نامه را دریافت می کنی، سه مرد را با خودت بردار و افراد با سواد شهر بورسی را و تمام لوه ها را، تمام آنهایی که در خانه های آنها هستند و تمام آنهایی را که در معبد ازیدا گذاشته شده اند، جستجو کن و بردار. الواه با ارزشی را که در بایگانی ها هستند و در آشور وجود ندارد، بردار و برای من ارسال کن. من به مقامات و بازرسان نوشتم هیچ کس حق ندارد لوهی را از تو دریخ کند یا شعیری را از تو پنهان دارد و تو بهتر می دانی که آنها برای کاخ من ضروری هستند. آنها را بردار و برای من بفرست. کوشش انجام شده برای گردآوری معارف زمانه به ویژه از آن روحه جان جانانگیزه است که از سوی رهبران جنگ جنگجویی صورت می‌گیرد که البته خواهان جاودانه کردن پیروزی خود هستند و در این حال می‌خواهند پیروزی‌های دیگران را نیز بشناسند و بر آنها حاکم شوند به علاوه آشوربانی پال تا حدی تحصیل کرده بود و به ویژه پدرش دستور داده بود دانش نوشتن را به او بیاموزند پس وجود او از یک سو محل تقاطع سنت خشونت و جنگ بود که نسبت به صلح آگاهی نداشت و از سوی دیگر تا حدی از هوش جهان معنوی برخوردار بود که شاید آری از خرافات حاکم بود. بر مشهوری این ابهام را نشان می دهد. شاه آشور در آنجا به راحتی زیر یک شاخ مو با ملکه از خرد سخن می ضمن آنکه سر بریده دشمن مقلوب خیشتومان ایلامی را به او هدیه هدی در بخش دیگر جنگجویان آشوری مشغول شمردن سرهای مغلوبان هستند. نینوا که عظمت آن مرهون الهه ایشتار بود در واقع از خاست الهه خود پیروی می کرد که هم ایزد جنگ بود و هم الهه عشق. اما در پایتخت آشور معبدی هم وقف نبو خدای نوشتن وجود داشت. در زربل مسئلی آمده است کسی که در علم نوشتن سرآمد شود چون خورشید خواهد درخشید. آشور بانیپال در چنین فضایی به سلطنت خود ادامه داد آشور که دیگر دشمنی نداشت به سوی تعادل پیش میرفت و قدرت عظیم او دیگر در خطر تهدید نبود به نظر میرسید که نینوا ویران نشده است شهر که با آبهای رودخانه های نیرومند محافظت میشد سپرده انصر مایع بود یکی از اولین ذکرهایی که از نینوا شده است در یک متن میخی قرن بیست و یکم قبل از میلاد وجود دارد و کلمه اندیشه نگاری که آن را نشان می‌دهد یک ماهی در وسط یک شهر است بنا به اشاره تورات سالها بعد از سقوط آشور یونس نبی پیام تعرض ناپذیر بودن نینوا را دریافت کرد یونس از سوی خدای اورشلیم مأمور شده بود به نینوا شهر بزرگ برود و کلام خالق آسمان و زمین را موعظه کند یونس که از عظمت تلاش خود آگاه بود و حراست داشت و حدس میزد که ممکن است موفق نشود چون نینوا فقط خدایان سنگی را که از هر لحاظ با اعتقادات او بیگانه بودند می پرستید ترجیح داد بگریزد و سوار یک قایق ماهیگیری شود طوفانی سهمگین در گرفت یونس به دریا افتاد و نوعی ماهی او را بلعید سپس او را بر خشکی قای کرد و یونس دریافت شهری که نماد او دقیقا یک ماهی بود پیام و معنای خاصی برای وی دارد آنگاه پیامبر ویرانی نینوا را دید و یونس به مسافت یک روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از چهل روز نینوا سرنگون خواهد شد. شاه و مردم نینوا پیشگوی پیامبر را جدی گرفتند و استغفار کردند. آیا خداوند کلام نبی و رسول خود را تایید می کرد؟ یونس که به رسالت خود اطمینان داشت، جانوری که او را نجات داده بود بازوی الهی می دانست که او را برای فرمان برداری از دستورات هدایت می کند و بیخبر از مشیت الهی در نجات خود کلبهای برای خیش ساخت و به انتظار نابودی شهر نشست. اما خداوند اون را نجات داد یا به عبارت درستتر آن را ویران نکرد و این نه از آن رو بود که اهالی شهر شایستگی آن را داشتند بلکه چون توبه کرده بودند. یونس ای ندید جز آنکه به خداوند متعال اعتراض کند و آرزوی مرگ نماید و از طریق دریا بگریزد با این توجیه که می دانست چون چنین پیشگویی تعقوق وزیر نیست ولی خداوند به او فهماند که از آن رو به شهر آسیب نرسانده است که بیش از 120 هزار نفر جمعیت آن حتی دست چپ و راست خود را تشخیص نمیدادند و حیوانات بسیاری نیز در آن شهر بود آیا این بدان معنا بود که او به غیر مسئول بودن ساکنان نینوا اشاره می کرد که عقلشان چندان بیشتر از حیوانات اهلی نبود؟ آیا این بخشش خدای یونس پیامبر هاشا شده در مورد شهر آشور به رقم اعتقادات عجیب، جنایات و خطاهای آن به معنای آسیب ناپذیری شهر نینوا نبود؟ آیا افزون بر این خدای یونس خود را حامی تمام انسانها نشان نمیداد؟ انبیای دیگر بنی اسرائیل نیز هر یک به نوبه خود چنین این نسبت به نینوا داشتند. نخست سفنیای نبی که اعلام کرد خداوندش آشور را حلاک خواهد کرد و نینوای زیبا را به ویرانی و به زمینی خشک مثل بیابان مبدل خواهد نبود. سپس ناهوم نبی که خطاب به رهبران آشور گفت و خداوند در باره تو امر فرموده است که بار دیگر ذریتی به نام تو نخواهد بود و از خانه خدایانت بطهای تراشیده و اسنام ریخته شده را منقطه خواهم نمود و قبر تو را خواهم ساخت زیرا خار شده ای با این حال هیچ چیز این اندیشه را پیش نمی آورد که قدرتی به تواند تمام منطقه را نابود کند هیچ نشانه از ضعف و رخنه ای در سنگ یک بارچه آشور دیده نمی شد. به جز طبق معمول در بابل و فرزندان آن هیچ انقلابی پدید نمی آمد. هیچ نشانه ای از شورش و نیروی نظامی اقوام هاشی نشین شرق امپراتوری وجود نداشت تا باعث حراس شود. مادها، ایلامیها و در بیرون مرز قوم پارس که تازه از کوچ روی دست برداشته و اسکان یافته بودند خطر محسوب نمی شدند. در عین حال نه از سمت شمال، سکاها، نه از سوی مصریان که محروم از نیروی نظامی واقعی بودند، نه از طرف هبشه که در مدخل خلیج جنوب مصر مستقر بودند، هیچ بیمی موجود نداشت. آشور اتل ایلانی، پسر آشور بانیپال که در رأس امپراتوری جانشین پدر شده بود، دلایل اوستواری داشت تا با خیال آسوده سر بر بالین بگذارد. با این حال، دربار پادشاهان آشور، دست خوش دسیسه های بیشماری از سوی شاهزادگان، کاهنان بزرگ و حتی زنان بود که قدرت سلطنتی را متزلزل می کردند. پهناوری سرزمین نیز مسائل دائمی سازماندهی را پیش می آورد. در واقع، تمام کشور به نحوی متمرکز و بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی یا ملی مانند یک شهر بزرگ داره می شد. نابودی نینوا از طریق آب در 616 بابلیان سازشناپذیر از میانه فراد که از مدتها پیش نیروی نظامی در آنجا مستقر کرده بودند شروع به حرکت کردند این بیشتر شورش بود تا حمله و رهبر نینوا نمی این حرکت را حمله یا ضربهی واقعی تلقی کند با وجود این فرد بابلی که این سپاه را فرماندهی میکرد، باعث نگرانی آشوریان شده بود این مرد کاردان که موفق شده بود شاه دست نشانده آشور به نام کاندالام را معزول و سلسله خاص خود را مستقر کند نبوپلصر نام داشت آمیزه‌ای از قدرت و دوراندیشی بود و از نظر سیاسی حس کرده بود که آشور قولی با پاهای چوبین است در سال 616 نوعی جنگ داخلی اقتدار آشور را تضعیف کرد و نبو احساس کرد که زمان برکندن یوغ نینوا فرا رسیده است. اما او باید با احتیاط پیش میکرد و از پشتیبانی کافی دیگر جماعات مقهور امپراتوری برخوردار می شد. نبو بی نبود که مادها بهای های بردگی را پرداخته و آماده شورشند، این جنگ جویان مغرور گرچه با بابلیان قابل قیاس نبودند، دلایل کافی برای اوسیان علیه اربابان خود داشتند. مقان ایشان که با کاهنان خدای مردو که بابل رقابت می کردند، پیام دادند که ماد آماده شورش است. لازم بود از این وضعیت استفاده شود ضمن آنکه که باید خود را از ضد حملات آشوریان در امان نگه می داشتند. بابلیان از درندخویی سرکوبگرانه اربابان نینوا آگاه بودند. اوقشترا، پادشاه ماد، توانست قبایل سکایی و پارس را متحد سازد و بدین ترتیب ارتش خود را به سبک آشوریان سازمان دهد و با انگیزه های همانند نبوپلصر تصمیم گرفت به آن شرط سپاه بفرستد و با بابل متحد شود که ضربه قاطعی بر آشور وارد سازند، چنان که دیگر نتواند کمر راست کند. سکاها نیز که تر و پرشتابتر بودند امنیت غرب دجله را به خطر انداختند و راهی طبیعی برای حمله به سوی نینوا کشف کردند البته این قوم که از استپا آمده بودند روزگاری ماد را اشغال کرده و بر فرزندان آن مسلط شده بودند را تنها هنگامی توانست مادها را آزاد کند که شبی با مست کردن فرماندهان سکاها تمام آنها را قتل عام کرد اما شاه جدید سکاها که آراباسس نام داشت، هنگام شورش عمومی علیه نینوا قبول کرد که با مادها دست نشاندگان سابق خود متحد شود. آیا مصریان نیز به این اتحاد ملحق می شدند و در حمله مشترک علیه دشمنان پیشین خود شرکت می کردند؟ پسامتی که یکم فرعون مصر بیم آن را داشت که مبادا قدرت جدیدی در صحنه ظاهر شود. از این رو حمله کنندگان به نینوا را دشمنان خیش تلقی کرد و سپاهی به کمک آشوریان فرستاد. این عمل بابلیان را از کار خود معیوس نکرد ولی آنها را وادار ساخت محتاطانه عمل کنند و به پایگاه های اولیه خود برگردند. با این حال در سال 615 به پای دیوارهای آشور بازگشتند ولی موفق به گشودن شهر مقدس نشدند. سال بعد، مادها با قدرت از راه رسیدند. هوقشتر دژ تار بیسو واقع در کمتر از پنج کیلومتری نینوا را تسخیر کرد، اما نمیخواست خطر کند و پیشرفت خود را تا پایتخت آشور که تا این حد نزدیک بود، ادامه دهد. مادها بیهوده در انتظار رسیدن بابلیان بودند، چون کلدانیان نتوانستند با سرعت کافی در امتداد رود حرکت کنند، هوقشتر بر آن شد که خود به شهر مقدس آشور حمله کند. کشدار وحشتناک بود و شهر قارت و ویران شد اما هنوز دشوارترین کار برای مهاجمان باقی مانده بود و آن اشغال نینوا بود در 612 بابلیان دست به حمله جدید ناموفقی در کرانه فرات زدند بالاخره در اواسط تابستان همان سال سپاهیان ماد بابل و سکاها با هم به سوی نینوا حرکت کردند دژها و استحکاماتی که از شهر ایشتار محافظت می کرد، یکا یک به دست مهاجمان افتاد. خرساباد، دجکاخ سارگون دوم که با دو حصار شده بود، تسخیر و ویران شد. اما دیوارهای پایتخت آشور راه دشمنان را سد کرد. این دیوارها چنان پهن بود که به نوشته دیودروس سیسیلی، سه عرابه همزمان و در کنار هم می توانستند از روی آن عبور کنند. طول دیوارها از پنج کیلومتر بیشتر بود و پانزده دروازه داشت. سنخاریب با روی خارجی را با ارتفاعی به اندازه یک کوه ساخته بود. کاخانیز نیز هر یک تژی بودند. دیوارهای آنها از آجر پخت ساخته شده که روی هم قرار دارند و در میان آنها فقط رطوبتی وجود دارد که حتی در زمان کار گذاشتن آن را حفظ می کند. با وجود این، مهاجمان به سرعت نقطه ضعیف را تشخیص دادند. رودخانه خسر که از شرق به قرب شهر عبور می‌کرد و به دجله می‌ریخت. در جنوب در مقابل دیوار کمربندی کاخ سنخاریب شهری حقیقی درون شهر بود. در آن بیش از دو هزار برجستکاری وجود داشت که مشهورترین آنها نشانه تسخیر لاکیج دژ یهودیه بود که شاه آشور پس از نبردی سخت به دست آورده بود. همین بود که آشوربانیپال پال کتابخانه مشهور خود را با ده هزار لوهه سفالی مستقر کرده بود. در شمال در کنار باروها قصر آشوربانیپال پال قرار داشت که هزارهای مرمرین آن صحنههای های شکار سلطنتی را نشان می داد و رویدادنگار نگار حقیقی زندگی روزانی شاهان محسوب می شد. در قلب شهر در جای ایمن معابد قرار داشتند که یکی خاص ایشدار و دیگری مربوط به نبو بود و به یاد می آورد که نینوه تحت حمایت خدایان قادری قرار دارد. فضاهای سبز چه در درون دیوار شهر و چه در بیرون فراوان بودند و آبیاری آنها در تابستان و زمستان پیوسته تأمین شده بود. به نظر می رسید، این آب همه جا حاضر که انعکاسی سیمین فام به تمام شهر نینوا می حمایت از آن را در برابر دشمنان تضمین می کند. با این حال، همین آب بود که نینوا را نابود کرد. در قلب تابستان، تقیان نابهنگام رود خسر باعث سرریز شدن حوزچه آبیاری و دیوارهای بیرونی شدند که در آنجا به رودخانه می ریختند. دیوارها را خراب کردند و رخنه پدید آمد که مهاجمان از آنجا حمله را آغاز کردند. در بهار سه نبرد بیرون دیوارها در گرفته بود اما اکنون پیکار قطعی و سرنوشت ساز درون شهر روی داد. دو قصر پادشاهان و دو معبد وقف خدایان در مدتی که آبها در خارج می غارت شدند و خروش آبها همانند طوفان دریایی بود که یونس نبی را به خاک آشور آورده بود. بسیاری از مردم در شهری که زیر نشانه ماهی نماد پیروزی ابدی بر امواج قرار داشت، جان خود را از دست دادند. نبوپلسر اجازه داد سردارانش به تعقیب فراریان بپردازند. شاه بابل توانست بر فراز شهر مقدس ویران شده بیستد و با فراغت خاطر به وسعت پیروزی غیرقابل تصور خود بنگرد و از آن لذت ببرد. آشور که از مدتها پیش حاکم بر تمام ملتها بود، و با یوغی که بر گردن آنها افکنده بود باعث زحمت مردم کشور میشد و من ضعیف و ناتوان که جویای خدای خدایان بودم به یاری نیروهای قدرتمند خدایانم نبو و مردوک دست عقد را از کشور کوتاه کردم و یوغ آن را برافکندم آخرین دسته های ارتش آشور به میدان هرران که در بین النهرین علیا در ری بالی قرار داشت پناه بردند آشوریان در نتیجه این شکست شاه جدیدی به نام آشور اوبالیت برای خود برگزیدند و او بیدرنگ کوشید تا هسته مقاومتی در هرران سازمان دهد. جایی که نامش به معنای جاده بود و گذرگاه میان شمال و جنوب محسوب می شد. هرران شهری که وقف خدای ماه سین بود قبلا محل اقامت ابراهیم و پدرش تراخ بود. روزگاری پایتخت آشور شد و تحت انایت معبد خدای سین که آشور بانی پال ساخته بود قرار گرفت اما با دوری از خدایان آشور و ایشتار شاه آشور برای بقای خیش چه بختی میتوانست داشته باشد آشور اوبالیت فرصت چندانی نداشت تا درباره علل سقوط نینوا و تقیان عجیب آب بیاندیشد در سال 610، سکاها و بابلیان به هرران حمله بردند، آن را اشغال و بدون زحمت چندانی ویران کردند، در حالی که شاه آشور به ایالات جنوبیتر پناه برده بود تا اینکه سرانجام در کرکمیش واقع در ساحل راست فرات مستقر شد. نگران‌های فرعون. اهالی مصر بیش از پیش نگران شدند. آیا سقوط نینوا این خطر را نداشت که به سرکردگی ابرقدرتها در منطقه پایان بخشد؟ فرعون جدید مصر نکوی دوم که جانشین پدرش پسامتی که اول شده بود تصمیم گرفت در کرکمیش به یاری آشوریان بشتابد. او ناچار بود از یهودیه یا سرزمین مرزی آن عبور کند. پس از اطاعت شاه منسی از آشوریان دیگر در منطقه سخنی از یهودیان در میان نبود، برمان روای جدید آنها شاهیوشیا که از هشت سال پیش بر تخت نشسته بود در سال 640 به بلوغ رسید و در نظر داشت احساسات ملی را بار دیگر در میان ملت زنده کند. به ویژه که ارمیا او را تشویق کرده بود تا موقوفه جدیدی برای معبد اورشلیم مقرر دارد که به تازگی پاک و آراسته شده بود. آیا لازم بود نکوی دوم از یهودیان که همواره مقصر اربابان شمال و شرق یعنی آشوریان و اربابان جنوب یعنی مصریان شده بودند به یهودیان یک دقدقه بیشتر در سر نداشتند و آن نگهداری از تعداد بیشمار غیبگوها و پیامبران بود که پیوسته فجایع وحشتناکی را به زبانی نامفهوم پیشگویی می کردند. شاه یوشیا نمی توانست با درک سیاسی خود برتری مصر به آشور را مثبت تلقی کند. شاهان نینوا قلمرو اسرائیل را نابود و قلمرو یهودیه را دست نشانده خود کرده بودند. به نظر یوشیا آنها بدترین دشمنان پیروان حضرت موسی در مسیر تاریخی خود بودند. پس از تسخیر نینوا و سقوط حران دیگر شکی در فروپاشی امپراتوری آشور وجود نداشت. اما این بدان معنا نبود که مصریان همانهایی که در سابق کشورشان خانه بردگان عبری بود به قدرت خواهند رسید شاهیوشیا یوشیا ترجیح می‌داد به جای رویارویی با مصر به نوعی همکاری و همزیستی با بابل بپردازد به نظر او ایجاد هرگونه تعادل با فرعون تصور ناپذیر می‌نمود اما پیروزی مصریان بر بابلیان خطر جان گرفتن دوباره آشور را در پی داشت از این رو پادشاه یهودیه بر آن شد تا جلوی پیشرفت نیروهای مصری را که به سوی شمال و در جهت کرکمیش حرکت می جایی که کلدانیان فراریان هرران و نینوا را در هم شکسته بودند، بگیرد. شاه یهودیه بسیار شادمان و سرشار از هیجان بود. او نخستین کسی بود که پس از مدتها موفق شده بود آین عید فس یعنی سالگرد خروج از مصر را نه فقط درون قلم خود، بلکه در کشور اسرائیل که آشوریان جمعیت آن را تبعید کرده بودند، برگزار کند. او با انجام این مراسم مذهبی، رشته گسسته تاریخ را دوباره پیوند داده و قوم ابراهیم را به سنت پدران آنها بازگرداند. رسوایی های کافرانه نیای خود منسی را جبران کرده بود و بدین ترتیب انقیاد سیاسی یهودیان و آنچه از اسرائیلیان باقی مانده بود، از میان برده بود. فرعون نکوی دوم کوشید با دلایل متعدد شاه پرشور یهودیه را قانع کند. در برخوردی نمایشی در برابر شهر مجدو، شهر برچها، واقع بر جاده کرکمیش، سرور مصر کوشید شاه یوشیا را متوقف کند. و نکو قاصدان نزد او فرستاده گفت ای پادشاه یهودا، مرا با تو چه کار است؟ من امروز به ضد تو نیامدم، بلکه به ضد خاندانی آمدم که با آن محاربه می نمایم و خدا مرا امر فرموده است که بشتابم پس از آن خدایی که با من است دست بردار. تو را هلاک سازد. به ظاهر استدلال فرصت طلبانه شاه جنگجو جو قوی تر بود. فرعون میخواست به یهودیان بفهماند که هدف نبرد بسیار فراتر از شورش های پراکنده پادشاهی های کوچکی چون قلم اورشلیم است. مصر در حال حاضر با یک خاندان یعنی یک سلسله میجنگد و اینکه که نتیجه نبرد بستگی به نقشه جدید در منطقه دارد. به ترتیب استقلال نسبی یوشیا حکمی کرد از مصریان که متحدانی چون یونانیان، هبشیان و لیبیایی ها داشتند حمایت کند تا به کمک شاه آشور بشه تابد که وحشیانی که از شمال آمده و با کلدانیان متحد شده بودند آن را تضعیف کرده بودند. در ظاهر، منافع سیاسی یوشیا اقتضا میکرد کرد که هیچ حرکتی نکند. استدلال خداشناستانهی که فرعون به کار برده بود، پادشاه یهودیه را به تعمل واداشت. نکو نگفته بود خدای من یا خدای تو، بلکه فقط گفته بود خدا، چنان که گویی منظور او مشیت الهی برتر خدای یکتایی، مشابه خدایی بود که موسا برای آن تبلیغ میکرد. کرد. فرعون افزوده بود، آن خدایی که با من است آیا این بدان معنا بود که اوزا و احوال خداوند عالم را متحد و پشتیبان نکو کرده بود و به فرمان او بود که فرعون مصر برای نجات آشور میخواست با به بجنگد اما آیا فرعون مصر مشیت خداوند را به سود خیش به کار گرفت؟ شاید نه در واقع فرعون تصریح میکرد مبادا تو را هلاک سازد پس نکو از یوشیا خواست از سر راه او کنار برود چون او برای نجات قلمروی یهودیه میجنگید همچنین او به روحیه و تلقی شخصی یوشیا در مقابل مشیت الهی تمکین می کرد. از طرفی ماجرا موجب تأجیل بود خدا مرا امر فرموده است که بشتابم نکو وقت بیشتری برای توضیح بیشتر طرح خود و منافعی که یوشیا از تحقق آن میبرد نداشت و تورات میافزاید لیکن یوشیا روی خود را از او بر نگردانید. بلکه خیشتن را متنکر ساخت تا با وی جنگ کند و به کلام نکو که از جانب خدا بود گوش نگرفته به قصد مقاتله به میدان مجدو در آمد. نبرد مجدو پیکاری سخت و خونین بود. در همان لحظات نخست یوشیا که بر عرابه خود سوار بود به شدت مجروح شد. تقاضا کرد او را به اورشلیم منتقل کنند و در همانجا درگذشت. قوم یهود با وحشت شاهد نابودی مردی شد که آیین خداوندی اجدادی را دوباره برقرار کرده بود. تمامی یهودا و اورشلیم برای یوشیا ماتم گرفتند. اما این نبرد با تمام خشونت خود به طور جدی پیشرفت مصریان را به تأخیر انداخت. نکو مجبور شد نیروهای خود را بازسازی کند و به ویژه به امور اورشلیم بپردازد. امیدوار بود شاه جدیدی به تخت نشاند که فرمانبردارتر از یوشیا باشد. فروپاشی آشور. نبوپلصر شاه بابل همچنان در برابر کرکمیش میجنگید. او نیز شتاب داشت تا هرچه زودتر کار ارتش آشور را یکسره کند، اما حس میکرد پیر شده است. در سال 605 که خبر نزدیکی بیش از حد نیروهای مصری را که سه سال تأخیر کرده بودند تا مسئله یهودیان را فیصله دهند شنید، تصمیم گرفت فرماندهی سپاهیان بابل را به پسرش واگذار کند. نبو جوان فرزند او تمام صفات لازم را برای هدایت درست عملیات داشت. در کرکمیش، واقع در کرانهای فراد، مصریان متحمل شکست سختی شدند، شاهزاده بابل سپاه نکور را تا شهر پلوزیوم در دروازه‌های امپراتوری فرعون تعقیب کرد و اگر از مرگ پدرش نبوپلصر آگاه نشده بود، سپاهیان مصر آنقدر ضعیف شده بودند که می‌توانست آنها را تا منفیس، تبس و شاید حتی تا حبش دنبال کند. اما چون بیم داشت بر سر جانشینی به او خیانت شود، به سرعت و مستقیم به بابل بازگشت و طی 23 روز از کویر عبور کرد. در بابل، در سال 605، ملت او را بدون مشکل به جانشینی پدر پذیرفتند. او در سال بعد تاجگزاری کرد و اداره تمام بخش جنوبی امپراتوری سابق آشور را بر عهده گرفت. در اورشلیم مردم، به رقم مرگ یوشیا و ظهور قدرت جدید بابل، سقوط قطعی نینوا و پایان روزگاری را که آشور بر جهان حاکم بود، جشن گرفتند. در واقع هیچ کس تصور فروپاشی چنین امپراتوری نیرومندی را در زمانی به این کوتاهی کرد. با توجه به ضعف اولیه رقبای آشور و قبایل سرگردانی که متحد بابل بودند و پیوسته از نیروهای نینوا شکست میخوردند مردمی که در گذشته به ناچار اقتدار آشور را پذیرفته بودند وضع جدید را جز مشیت الهی نمیدانستند. به مردم اورشلیم به مفهوم سخن پیروز مندانه فرعون نکو در برابر مجدو بی اتناب بودند و ارمیای نبی پس از نبرد نهایی کرکمیش فریاد برآورد خداوند میگوید چرا ایشان را میبینم که حراسان شده به عقب برمیگردند و شجاعان ایشان خورد شده بالکل منهزم می شوند و به عقب نمی نگرند زیرا که خوف از هر طرف میباشد به طرف شمال به کنار نهر فرات می لغزند و می افتند. ای اسبان براید و ای عرابه ها تونت بروید و شجاعان بیرون بروند زیرا که آن روز روز انتقام خداوند یهوه سوایوت می باشد که از دشمنان خود انتقام بگیرد. از طرف دیگر ناهوم نبی با سرود شادمانهی به قوم بنی اسرائیل اعلام می کند خداوند چنین میگوید گوید اگرچه ایشان در قوت سالم و در شماره نیز بسیار باشند لیکن منقطع شده در خواهند گذشت. و الان یوغ او را از گردن تو خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت. وای بر شهر خون ریز که تمامش از دروغ و قتل مملو است و قارت از آن دور نمی شود. آواز تازیان ها و صدای قرقر چرخها و جهیدن اسبان و جستن عرابه ها. سواران حجوم می آورند و شمشیرها برراغ و نیزه ها لامع می باشد و کسرت مجروحان و فراوانی مقتولان و لاشه ها را انتها است. تمام کسانی که از سرنوشت تو آگاه شده اند در سقوط تو هل خواهند کرد. نینوا دیگر هرگز سر بلند نکرد و آباد نشد. هرگز کاخهایش، قصرهای شاهزادگانش، ارگها و دژهایش اسکله هایش، ها و بوستانهایش رنگ زندگی به خود ندیدند. پیشگویی سفنیای نبی برای همیشه به تحقق پیوست که خداوند، دست خود را بر زمین شمال دراز کرده آشور را هلاك خواهد کرد و نینوا را به ویرانی و زمین خشک مثل بیابان مبدل خواهد نمود. نصر پادشاه جدید بابل هدف نبوکدنصر آن بود که با سرمش گرفتن از پدرش نبو بابل را که در آن زمان کلان شهر ساده ی ایالت آشور بزرگ بود تبدیل به یک پایتخت حقیقی کند و بدین ترتیب آینده شایسته‌ای برای گذشته پر افتخار این شهر باستانی تضمین کند اما اگر آرمان اصلی کلده با سازی بابل بود باید اول نقاط استراتژیکی را که در گذشته تحت اشغال سپاهیان نینوا بود تصرف کند زیرا در غیر آن صورت این خطر وجود داشت که بابل نیز تبدیل به قولی با پاهای گلی شود بقیه کشور آشور تبدیل به ویرانه شده بود، خالی از سکنه، همگی یا تبعید شده یا همراه خدایان خود از برابر دشمنی انتقامجو گریخته بودند. کشور ایلام که موقعیت استراتژیک آن بر گذرگاه چادرنشینان شمال و شرق حاکم بود مشکل خاصی نداشت. نیروهای بابلی جلگه پیرامون شهر شوش پایتخت ایلام را تصرف کردند و مادها به اشغال منطقه کوهستانی آنشان پرداختند که پارسها در آنجا مستقر بودند. به هر حال جایی برای حراس از مادها که کم و بیش متحد بابلیان بودند وجود نداشت مگر نانک هوخشترا پادشاه ماد دختر خود آمیتیس را به همسری پادشاه بابل داده بود. در واقع هوق را به خورد ریزهای باقی آشور مقلوب علاقه ای نداشت. مادها به جز دژ مستحکم هرران در صدد تصرف قطعی محل دیگری بر نیامده بودند. در عوض تمام منطقه سوریه و فلسطین دالان قولاسای شمال به جنوب در هاشیه کویر از سمت شرق و دریا از سمت غرب که اقوامی شورشی در آنجا اقامت داشتند برای بلند پروازی های مصر گشوده مانده بود. البته نبو کد با سرکوب نکوی دوم در کرکمیش و تعقیب او تا دروازه مصر قدرت خود را به مردم منطقه فنیقیان، یهودیان، امونیان، موآبیان نشان داده بود. اما قدرت نمایی برای بابل کافی نبود. لازم بود به اداره آنجا بپردازد. بدین سان نصر چند ماه پس از تاجگذاری به سکوی اسقلون واقع بر جلگه ساحلی در گذرگاه مصر حمله برد. او ساکنان شهر را متی و مجبور به پرداخت خراج کرد. نخست تصمیم داشت حرکت خود را به سوی مصر ادامه دهد، ولی سرانجام با حرکت به سوی شمال، صحرای سوریه را تصرف و آرام کرد. از این پس دژهای مستحکم و نقاط که بسیاری در اختیار کلدانیان قرار گرفت که حداقل از لحاظ نظری صد راه قدیمی حمله مصری ها بود اما در عین حال نبوکدنصر ناچار بود اهالی مناطق خود را نیز آرام و مطیع نگاه دارد بی آنکه به اعتقادات اقوام گوناگون بابل کاری داشته باشد به ویژه قبایل آرامی که به برکت قدرت همانندسازی بابلیان در جمع کلدانیان حل شده ولی اعتقادات ویژهی خود را حفظ کرده بودند. نبو که خود کلدانی آرامی بود میدانست چگونه دو سنت را با هم آشتی دهد. نبو باید همین راه را ادامه میداد و میان رب و نوعهای خود که شالوده معنوی قدرت او را تشکیل میدادند و ایزدان ستارهی که جهانی تر و مورد احترام آرامیان بودند تعادل برقرار کند. تسلیس مردوک نبو نرگل ستون دین ملی بابل را تشکیل میداد. سرنوشت مردوک، سرور و خالق جهان که افتخار و اقتدار او بی همتا بود، با سرنوشت بابل یکی شده بود و از آنجا که پدر خدایان بود، برای او آین برتری برگزار می شد. نبو که نبو و پدرش نبوپلسر نام خود را از او گرفته بودند، خدای حافظه و دانش بود و احتمالاً بدش نمی آمد به شاهان جدید بابل به خاطر نامشان یادآور شود دانایی است که توانایی می بخشد. و بالاخره نرگل خدای جهنم و قدرتهای سیاه و ظلمانی بود. خدایی که در قلب و روح ملتها نگرانی و حراس می‌افکند. آرامیان با برادران نژادی خود که در سراسر خاورمیانه و خاور نزدیک زندگی می‌کردند پیوند داشتند و در آنجا گذشته را ساخته بودند. به ویژه در کشور سوریه گاه دولتهای کوچکی پدید آورده بودند. آنها در ارتباط دایمی با یهودیان منطقه و به دلیل برکت درک تجاری و مهارت‌هایی که داشتند نفوظ معینی به دست آورده بودند. زبان آنها در همه جا رایج بود و همه نخبگان آشوری بابلی در شهرها و روستاها به آن زبان سخن می‌گفتند و آن را در می آفتند. از این رو نبوکود نصر اهمیت آنها را نادیده بگیرد، این چادر نشینان باستانی که مدتهای طولانی را در بیابانها گذرانده بودند، ماه و خورشید و ستاره بامدادی ونوس را می پرستیدند. سین، سرور تاج و هلال ماه که آهنگ حرکت و شکل آن نامنظم بود. شمش، خدای خورشید و پسر سین که حافظ زندگی و الگوی اعمال انسانی بود، زیرا انگیزه او را روشن می‌کرد، قاضی تمام ایار و خدای ادالت و انتقام بود. و سرانجام ایشتار که جریان حرکت ستاری بامدادی را تنظیم می کرد، الهه جنگجوی و شهوت نزدیک به انسانها، یاریگر و دوست داشتنی برای دوستان و حولناک برای دشمنان خدمتگزاران خیش بود. این تسلیس اسرارآمیز سین، شمش، ایشتار در جهان بابلی جایگاهی ویژه داشت، و نبو نصر تصمیم گرفت معبد سین را در شهر اور، معبد شمش را در شهرهای سیپار و لارسا و معبد ایشتار را در اروک برپا کند. پسر نبو پولستر با احداث این محلهای مذهبی در مراکز ایالتی تعادل ناگزیری در وحدت اطباع خیش ایجاد کرد. نکد نصر مانند تمام فاتحان بزرگ دوران باستان قبل از هر چیز میکوشید الهه های اقوام گوناگونی که او را احاطه کرده بودند با هم آشتی دهد. تسلط بر ملت ها در درجه اول نه تنها گروگانگیری از خدایان آنها با تبعید بلکه جلب عنایت و حمایت ایشان بود. از این لحاظ وجود خدای یهودیان مشکلی برای نوکودصر ایجاد نمیکرد. چگونه میشد خدای نادیدنی همه جا حاضر و یکتا را به دست آورد با وجود این زمان تعمل نبود ضرورت استراتژیکی امانع مصریان بود تا امپراتوری خود را به سمت شمال گسترش دهند و کلده را تهدید کنند نبوکدنصر باید میان فنیقیان و شهر مشهور سور که در عین حال دژ استوار زمینی و پایگاه دریایی کشتیها در تمام منطقه بود و موابیان و امونیان و قبتیانی که ساکن نواهی زیر کویری بودند که مصر را از سوریه و یهودیه جدا می کرد و بالاخره قلم اورشلیم که می توانست جاده شمالی را تحت کنترل داشته باشد خط دفاعی ایجاد کند تا همیشه بر زعیفترین حلقه زنجیر یعنی یهودیه نفوذ داشته باشد تصویه حساب با یهودیان در اورشلیم آشفته تر بود و یهودیان سرشار از جوش و خروش بودند. در واقع شاه یهویاقیم شهر مقدس را در اختیار اعمال بدپرستانه گذاشته بود. اورشلیم دستاوردهای یوشیا را فراموش کرده بود. مرگ او ضربه‌ای محتوم بر امیدهای پیامبرانی بود که در فقدان او دست به شکوه و زاری بلند کرده بودند. پر ترین آنها ارمیای نبی و شاگردش باروخ بودند که بیهوده از مردم تقاضا میکردند از پرستش خدایان بیگانه دست بردارند. گویی فقط این دوقم اسرائیل را تشکیل میدادند. شگفت اینجا بود که پیامبران یهود بابل را دشمن نقشه های خود در جان بخشیدن دوباره به اسرائیل تلقی نمی نمیکردند. به نظر ایشان اطاعت از بابل کم خطرتر از پذیرش نابسامانی دینی و اخلاقی بود که قوم بنی اسرائیل یا فرزندان داوود را تهدید میکرد. ارمیا ضمن موعظه احترام به اتحاد با بابل در ظاهر به سعادت دورتری می نگریست، اما با این حال در مورد یهودیان و سرنوشت معنوی آنها نظر بود. او از باروخ خواست کتاب کاملی درباره پیشگویی های وی بنویسد. خداوند چنین گفت اگر به من گوش نسپارید و در جهت قانونی که برای شما مقرر کرده ام راه نسپرید اگر از گفته های پیامبران و خدمتگزاران من اطاعت نکنید من این معبد را به وضع معبد شیلو در خواهم آورد و این شهر را به لعنت ابدی تمام ملل روی زمین دوچار خواهم کرد شاه یهو با شنیدن این سخنان بران شد که به زندگی ارمیا خاتمه دهد مگر همو نبود که ویرانی اورشلیم و پیروزی بیگانه را پیشمینی کرده بود. با این حال زندگی ارمیان نجات یافت زیرا به عقیده مردم او فقط سخنان خداوند را بازگوی کرده بود. در واقع آشفتگی و فتنجویی ملت در نتیجه ناراحتی عمیقی بود که در سطح جامعه وجود داشت و آن فقدان یک طرح وسیع ملی بود. اکنون قلمروی یهودیه برای هر نوع ماجراجویی گشوده بود این وضعیت تا وقتی که شاه یهویاقیم در مقابل آوازهای ناخوشایند و به ویژه تحریکات مزورانه نکوی دوم به شورش مقاومت میکرد، چندان باعث آشفتگی خیال نبو نمیشد نمی شد. اما او میخواست از موضع نکوی یهویاقیم مطمئن شود و تا حدی او را مرعوب سازد از این رو در سال 602 نبوکدنصر بر آن شد که به سوی اورشلیم حرکت کند. نه نبردی رخ داد و نه مقاومتی راستین صورت گرفت. کلدانیان چنان وارد اورشلیم شدند که گویی این شهر یکی از شهرهای مشرق زمین بود که قانون ارباب جدید منطقه را پذیرفته بود. یهویاقیم فرمان برداری فرود آورد اما شاه بابل که می‌خواست برتری کامل خود را به آنها نشان دهد خواستار آن شد که بخشی از های هیکل اورشلیم را به نشانه حسن نیت یهودیان در اختیار او گذارند جامهای زرین و ظروف مقدس معبد را غارت و همه را به بابل منتقل کرد سپس به خاجگان خود فرمان داد که از میان پسران اورشلیم از نژاد شاهان و شاهزادگان جوانانی را برگزینند. جوانانی که هیچ عیبی نداشته باشند و نیکو منظر و در هر گونه حکمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند که قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند. بنابرای نوشته تورات آنها نخست دانیال را برگزیدند که جوان و زیبا و امید اسرائیل بود و هوشی استثنایی داشت سپس سه جوان دیگر را که نجیب زاده بودند و ایمانی استوار به خدای اورشلیم داشتند یعنی هننیا، میشائیل و ازریا انتخاب کردند یهویاقیم وعده داد که به اتحاد با بابل وفادار بماند وقتی نبو نظر از یهودیه دور میشد در حالی که بخشی از خزاین ملی و بهترین فرزندان یهودی را با خود برده بود، یهویاقیم یاقیم با این حس به او مینگری است که از ماجرایی پر سر به سلامت جسته است و در عین حال به شدت ناراحت بود اما آنچه اساسی بود نجات یافته بود. یهودیه تا حد ممکن استقلال خود را حفظ کرده و معبد بدون آسیب باقی مانده بود. به فراز و نشیبها و سستی خلقیات و اعتقادات مذهبی قدس مقدس مقدسترین قسمت معبد اورشلیم در نظر فرزندان موسا نماد آزادی و علت وجودی اسرائیل دست نخورده باقی مانده بود اما نبو نیز از نتیجه کار احساس رضایت میکرد دیگر به نظر نمی یهودیان در صدد اتحاد با فرعون برایند شاه بابل در اورشلیم به هدف خود رسیده بود شاهزادگان گروگان و ظروف مقدس را مطابق میل خود در اختیار داشت. با وجود اعلام اطاعت اورشلیم، حالت تحریک و پریشانی خاصی بر مردم سوریه و فلسطین هوک فرما شده بود. موابیان و امونیان کماکان امیدوار بودند، جهشی از مصر کانونهای شورش را در منطقه زد و باعث شود که یهودیان از اتحاد خود با بابلیان دست بشویند. نبوکود نصر برای آرام کردن این جماعات و استوار کردن حضور خود حملات نظامی متعددی انجام داده بود. به خصوص باید عشایر چادرنشین صحرای سوریه را تحت کنترل در میآورد. این بدویان که اتباع سابق آشوریان محسوب میشدند مزه استقلال را چشیده بودند و ترجیح میدادند تحت حمایت نکو باشند زیرا او با سرزمین آنها فاصله زیادی داشت. نبو نصر شد مواضع بابلیان را در حمات و ریبله مستحکم کند. تاراج بسیار زیاد بود و مردم یوق بابلیان را با دشواری تحمل می کردند. در سال 601 نبوکود نصر به مرزهای مصر نزدیک شد. او می خواست بدین ترتیب قدرت سپاهیان فرعون را بیازماید. اقوام کوچک اطراف به این درگیری ها بسیار حساس بودند و ارزشی نمادین به آنها میدادند. نبرد شدید اما بی نتیجه بود. رویداد نامه بابلی گزارش می دهد که شاهان بابل و مصر در میدان نبرد با یکدیگر جنگیدند و هر دو ضربات مرگباری بر یکدیگر وارد آوردند. نبو به این نتیجه رسیده بود که هنوز زمان ضربه قطعی فرا نرسیده است. این تصمیم گرفت بیش از آن سرسختی نکند. شاه بابل ترجیح داد سپاهیان خود را به یمن دوردست بفرستد در آنجا به گنجینه‌های افسانهای دست یافت و دو اشیره کامل عرب را نیز با خود همراه کرد اما نتوانست کاملا بر این کشور مسلط شود و این مأموریت جنگی موجب خستگی سپاهیانش شد اهالی اورشلیم به محض اطلاع از عقبنشینی بابل و ناکامی آن در یمن و به رغم دعوت پیامبران به آرامش یهودیان را فراخواندند تا خود را از قید بندگی بابل رها کنند یهویاقیم یاقی مندیشید روزی فرا رسیده است که میتواند به قوم خود استقلالی را اعطا کند که در آرزویش بود. پادشاه یهودیه دلایلی داشت که تصور کند جانشین نکو شاه جدید پسامتیک دوم در صورت بروز مشکلات جدی با کلدانیان به یاری او خواهد شتافت. بنابراین از پرداخت خراج به نبو نظر خودداری کرد. در سال 598، فقط سه سال پس از آخرین دیدار بابلیان از اورشلیم، سپاهیان کلدانی شهر مقدس ابریان را محاصره کردند. در هر دو سوی حسارها، مهاجمان و محاصره شوندگان به یاد شاه آشور سنخاری افتادند که یک قرن پیش اورشلیم را محاصره کرد. یهودیان به رقم سستی اعتقادات مذهبی خود فکر میکردند خداوند ایشان بلایی مشابه آنچه موجب گریز شاه نینوا بدون نبرد شده بود به سر بابلیان نیز نازل خواهد کرد. اما مصریان به یاری آنها نیامدند و چرخ گردون نیز هیچ بازوی رهایی بخشی به یاری یهودیان نفرستاد. در بهار 597 یههو یا قیم به چنگ نبکود افتاد و محکوم به مرگ شد. بدین ترتیب پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که خداوند درباره یهویاقیم پسر یوشیا پادشاه یهودا چنین میگوید که برایش ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفت آه ای برادر من یا آه ای خواهر و نوحه نخواهند کرد و نخواهند گفت آه ای آقا یا آه ای جلال وی کشیده شده و بیرون از دروازه های اورشلیم به جای دور انداخته شده به دفن الاق مدفون خواهد گردید. یهویاقیم در 36 سالگی پس از 11 سال سلطنت درگذشت. آیا این پسر یوشیای پارسا همانی نبود که اجازه داده بود کشورش تباه شود؟ مگر در زمان او نبود که آینه بود پرستی و شرک احیا شد، ایمان یهودیت رو به تضعیف گذاشت و فکر استقلال کشور کنار گذاشته شد. آیا او نبود که یهودیه را تبدیل به دومین قلمرو اسرائیل کرد و فرزندانش در سراسر امپراتوری آشور و شهرهای پر از جماعات بیگانه کافر پراکنده شدند؟ مسئله دیگری نیز نخبگان یهودیه را نگران می کرد. شاید نبو بی بیان که خود بداند فرستاده خداوند و دست رهایی بخش الهی بود یهو در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزید و نبو پاد پادشاه بابل به ضد او برآمد و او را به زنجیرها بست تا او را به بابل ببرد ارمیانیز به نوبه خود دوباره شروع به معزه برای ملت یهود کرد که باید از بابل اطاعت کنند پیامبر برای تزکیه و پالودگی قلم یهودیان از انحرافات و کفر هیچ وسیله دیگری پیدا نمی کرد. این بار نبو به بردن چند جوان هوشمند قناعت نکرد. او سه هزار و بیست و سه مرد از بهترین مردان یهود را با قل و زنجیر همراه خود برد. اما معبد را ویران و شهر اورشلیم را تاراج نکرد. آیا بدین ترتیب امیدوار بود با روح این ملت ناآرام و استقلال طلب آشتی کند و آنها را متحد وفادار خیش علیه مصر بسازد؟ نبو پس از نشان دادن اقتدار خود با کشتن یهویاقیم و نمایش نیکو نهادی و حسن نیت خیش با حرمت قائل شدن برای معبد شهر مقدس تصمیم گرفت پسر یهویاقیم را که در آن زمان هجده ساله بود و یهویاکین نام داشت به جای پدر به تخت سلطنت بنشاند. نبو نصر با اثبات درک سیاسی خود و برقراری قدرتی مشروع از طریق انتخاب شاهیوش شاهیوشیای قدیس شاید فکر میکرد نقطه پایانی بر شورشهای دایمی یهودیان گذاشته است. باری یهویاکین به رقم جوانی سیاست ارباب نیرومند بابل را ناکام گذاشت. چند سال بعد پیامبر جدید حزقیال نبی او را چنین توصیف کرد. و بگو مادر تو چه بود؟ او در میان شیران شیر ماده می خوابید و بچه های خود را در میان شیر جیان می پرورد. و یکی از بچه های خود را تربیت نمود که شیر جیان گردید و به دریدن شکار آموخته شد و مردمان را خورد. از دادن خراج به شاه بابل امتناع ورزید. روایت شفاهی یهودیان گزارش می‌دهد که نبوکودنسر هنگام پیروزی بر بابل پس از سقوط اورشلیم سخنان مشاوران خود را به یاد آورد که گرگ زاده عاقبت گورگ شود. او با جایگزین کردن یهویاکین به جای یهویاقیم مرتکب اشتباه بزرگی شده بود. پس شاه بابل با خشم فراوانی در دل یک بار دیگر به سوی اورشلیم حرکت کرد. نبوکدنصر تگی کمتر از هجده ماه برای دومین بار به یهودیه رفت. او سرشار از روح انتقام جویی در ریبله، واقع در, در ری بقا مستقر شد. بنا نوشته تلمود، دستور داد خردمندان بزرگ اسرائیل، مرکب از هفتاد عالم را نزد او آورند و از آنها خواست شاه شورشی را به او تحویل دهند. او قول داد که به شاه آنها آسیبی نرساند و تایید کرد که فقط میخواهد او را با خود به بابل ببرد. علما شرایط نبوکدنصر را پذیرفتند و شاه خود را تسلیم او کردند. او نیز فرمان داد که یهویاکین مادرش و نزدیکانش را به بابل تبعید کنند تا در آنجا شاه یهود با تحقیر مردم مواجه و سپس زندانی شود. با این همه نبوکدنصر همچنان به تعهد اخلاقی خود درباره عدم تجاوز به معبد و ویران نکردن شهر پای بند ماند. او برای حفظ قدرتی مشروع بر شهر مقدس و کل یهودیان به جای پدر و پسری که به او خیانت کرده بودند یکی از برادران شاه یوشیا به نام صدقیه را بر تخت نشاند که پذیرفته بود خراج به پردازد و به بابل وفادار بماند اما به نظر می که اسارت یهویاکین برای جبران خیانت یهودیان کافی نیست نبو تصمیمی اساسی گرفت او بنا به جنگی آن زمان فرمان داد ده هزار تن از نخبگان اورشلیم به بابل تبعید شوند این افراد نه تنها ارزشمندترین بلکه ماهرترین ایشان بودند آهنگران بنایان پیشوران، صنعتگران و هیزومشکنان از آن جمله بودند حزقیال جوان نیز در میان ایشان بود گروه تبعیدیان صفه طولانی تبعیدیان به تعداد 10.832 تن جاده بابل را در پیش گرفتند. مسیر آنها البته مستقیم ترین مسیر نبود چون در آن صورت مجبور می شدند از کوی را بور کنند. پس بیگومان آنها به سوی شمال رفتند و به دره فرات رسیدند. کمی بالاتر به دره دجله هدایت شدند تا ویرانه های را به چشم ببینند و دریابند که اگر شاه جدید سازش موقت را نپذیرد چه خطری کشورشان را تهدید می کند. در سال 5۶ ویرانگران پایتخت آشور را با خاک یکسان کردند. اینجا و آنجا چند گاو سنگی بالدار محافظان ستونها و سنگها و مدافعان موقتی عظمت آشور هنوز در میان گرد و قبار و باد گرم پا بر بود. از ایرانی که از پایتخت آشور قدیم گذشتند، بیگمان به فروپاشی توصیف ناپذیر امپراتوری آشور و عقب نشینی دستهای رزمندگان از برابر اراده کلدانیان و مادها برای فرو افکندن قدرت ستمگر نینوا اندیشیدند. اما آیا به این فکر نیفتادند که روزی خود آنها نیز میتوانند بر ستمگرانی که بر ایشان ستم می کنند پیروز شوند نه برای اینکه آنها را برای همیشه از روزگار پاک کنند بلکه برای اینکه خود بتوانند زندگی محترمانه و مستقلی داشته باشند و به ویژه آین یک تا پرستی را با همه پاکی خود برقرار کنند آیا حزقیال جوان نیز ویرانه های نینوا را دیده بود وقتی او پس از سالهای تبعید شروع به پیشگویی کرد گردونه یا عرابه آسمانی را چنین توصیف کرد پس نگریستم و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمیآید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشنده‌ای گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها چهار رو داشت و هر یک از آنها چهار بال داشت و زیر بالهای آنها از چهار طرف آنها دستهای انسان بود و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون میرفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم میرفتند. و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و آن چهار روی شیر به طرف راست داشتند و آن چهار روی گاو به طرف چپ داشتند و آن چهار روی عقاب داشتند و چون آن حیوانات را ملاحظه می‌کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات برای هر کدام از آن چهار بر زمین بود و چون آن حیوانات می رفتند چرخا در پهلوی آنها می رفت، و چون آن حیوانات از زمین بلند می شدند چرخا بلند می شد زیرا که روح حیوانات در چرخا بود آیا در زبان پیامبر این حیوانات عجیب که با اراده و مشیت الهی در اوج آسمان حرکت می کردند گاوهای بالدار نینوا و بابل نبود که با قدرت الهی حمل می آیا این چرخ ها قوی تر از چرخ های عرابه های بابلیان نبود که همراه با کلدانیان تبعیدی ها را در طول مناطق مفتوحه همراهی می کردند آیا پیش بینی تحت تأثیر ادراک کیهان شناختی فاتحان اورشلیم انجام گرفته بود آیا پیامبر میخواست خواست پیش بینی خود را با رجوع به فرهنگ محلی کامل کند در واقع بابلیان از مدتها پیش با تصویر گردونی آسمانی آشنا بودند بنا به سنت ایشان آسمان به شکل قاره بزرگ مدوری بود که دو درب آن باز می‌شد یکی از سوی مشرق و دیگری از سوی مغرب خورشید روی عرابهی قرار داشت که گورخران آن را می‌رانند هر روز صبح از در شرقی وارد میشد به سوی جنوب بالا میرفت تا دروازه غربی پایین میآمد و از آنجا ناپدید میشد تا دوباره وارد قار شود. به نظر بابلیان صفحه آتشین خورشید غروب کننده یکی از چرخهای عرابه بود. توصیف شفاهی یهودیان از سفر تبعیدیان تصویری فجیع و شاید تحریف شده ارائه داده است. برای یهودیان جاده طولانی و سخت بود. نبو کدنسر بی رحمانه ممنوع کرده بود که تبعیدیان بیش از یک لحظه توقف کنند زیرا بیم داشت که آنها در توقفهایشان متحد شوند دست به دعا بردارند و از خدای خود طلب معجزه کنند تا آنها را نجات دهد آیا یهودیان سزاوار پشیمانی و توبه نبودند؟ نبو فقط هنگامی احساس آسودگی کرد که سف تبعیدیان به رودخانه فرات رسید سرور کلدانیان برای گرامی داشت ورود خود زیافت بزرگی برپا کرد. روی قایقی نشست و فرمان داد وارسان قلم یهودیه را با قول زنجیر از روی رودخانه و در برابر او رژه ببرند. سپس تومارهای قانون را که تبعیدیان به همراه داشتند پاره کرد و دستور داد از تکههای آن کیسههایی بسازند آنها را از شن و ماسه پر کنند بر دوش شاهزادگان اسرائیل بگذارند و آنها را به حمل کیسه وادارند. دارند. شاه بابل همچنین به سرودسرایان معبد اورشلیم فرمان داد در برابر او آهنگهای مقدس یهودیان را بخوانند. اما به نوشته تلمود، نوازندگان به جای اطاعت از فرمان جلادان خود ترجیح دادند، انگشتان خود را با دندان قطع یا خودکشی کنند. تبعیدیان دوباره به راه افتادند. جوانان ناچار بودند سنگینی تنه درختان سید را که به فرمان نبو از لبنان به بابل حمل میشد، تحمل کنند. دیگران زیر ضربات تازیانی نگهبانان بسته بزرگ علوفه و غیره را حمل می کردند. سرانجام کسانی که از محلک جان سالم به در برده بودند به بابل رسیدند. آیا از همان خیابان عریزی وارد شهر شدند که 16 متر پهنا داشت و به دروازه ایشتار و کاخ سلطنتی منتعی شد؟ آیا برای ایشان ممکن بود که به پیکرهای شیران که بر زمینه آبی دیوارها را در امتداد خیابان تزین میکرد و 600 تندیس گاو و اجده که که دروازه کاخ را آراسته بود بنگرند؟ باروی کمربندی شهر 25 متر عرض داشت. هر 18 متر برجهایی افراشته بود که باروهای حقیقی درون باروهای آن بود. شهر تعدادی معبد قولاسا و برج داشت که با بلیان از زمانهای بسیار دور به سوی آسمان افراشته بودند و آنها را خانه های حافظ آسمان و زمین مینامیدند کاخها و اقامتگاه های شاهزادگان صفه های در جنب فراد داشتند که باقهای معلق آنها ساخته و با گلها و گیاهان کمیاب آراسته شده بود آیا تبعیدیان آنقدر نیرو داشتند که شکوه زیبایی و قدرت این شهر فوقلاده را دریابند؟ آیا آنها امیدوار بودند در میان انبوه جماعتی که به تماشای آنها آمده بودند هم میهنان خود نخستین تبعیدیان را ببینند؟ شاید در آن زمان بعضی از یهودیان به ارمیا فکر می کردند که آنها را برانگیخته بود به اراده کلدانیان گردن گذارند؟ معنای این سیل بدبختی که بر سر آنها فرومی ریخت چه بود تبعید به قلب کشور بدپرستان و مشرکان چه سهمی در بقای قوم بنی اسرائیل که امروز از معبد خود دور افتاده بودند داشت تبعید یهودیان با اینکه ظالمانه بود به نسبت رفتار سنتی فاتحان پس از نبردها تا حدی پیشرفت محسوب میشد. تا زمان تیگلت پلسر در قرن دوازدهم آشوریان و بابلیان بسیار بیرحم بودند. فاتحان تمام اسیران را قتل عام می کردند و با سرهای آنها چادرهای خود را می آراستند. اولین نقل و انتقال جماعات که جنبه تبعید داشت از قرن یازدهم به فرمان آشور نسیر پال شروع شد و تا زمان تیگلت پلسر سوم در قرن بعد ادامه یافت. اما افراد سلسله سارگون این عمل را به یک اصل تبدیل کردند. سارگون و پسرش با پراکندن اسرائیلیان از سامریه در واقع از عملی پیروی کردند که نزد اربابان آشور عادی شده بود. بعد نبوکود شاه بابل تبعید را به یک قانون تبدیل کرد. او پس از جلوس به تخت حق تبعید جماعات را تنظیم کرد و مناطق خاصی را برای اسکان تبعیدیان در نظر گرفت. شاه یهویاکین، دانیال و ستن از دوستانش، هزقیال و نخبگان اسرائیل زندانی بابل شدند تا شاه یهودی صدقیا بتواند حکومت کند. صدقیا در سال چهارم سلطنت خود، سال 594 برای نشان دادن میل به استقلال و در این حال وفاداری به اتحاد با بابل به آن شهر مسافرت کرد. شاه یهودی در برابر عظمت و قدرت این شهر مغرور با دیدن وضعیت اسیرانی که از یهود بودند بیگمان دریافت که هر کوششی مبنی بر پشت پا زدن به اتحاد تا چه اندازه خطرناک و در واقع خودکشی است با این حال صدقیا هنگام بازگشت به اورشلیم نسبت به پیشنهادهای مصریان بی توجه نبود فرعون حفره جانشین پسامتی که دوم از رؤیای استراتژیکی که از زمانهای عظمت الهام بخش مصر بود یعنی استقرار در آسیا چشم نپوشیده بود. از همان موقع فنیقیان با چشمی تیزبین مراقب پیشرفت های مصر بودند. آیا میان این دو ملت نقطه‌ای برای توافق در تقسیم تسلط بر دریا وجود نداشت؟ ملتهایی که اهمیت کمتری داشتند ولی باز آماده جنگیدن بودند به مذاکره و دسیسه پرداختند. سرانجام همگی به توافق رسیدند و بیپرواترین و زود شکنترین پادشاه منطقه که بهترین اتباعش در بابل اسیر بودند درست مانند اسلاف خود یهویاقیم شوربخت و یهویاکین تبعیدی از پرداخت خراج به بابل امتناع ورزید. او با مصر عقد اتحاد بست و منتظر حوادث نشست. نبو کدنسر که میخواست کار خود را با دشمنان به ویژه با مصر یکسره کند شروع به حرکت کرد. شاه بابل ستاد خود را در ریبله مستقر کرد ولی لحظه دچار تردید شد. آیا بهتر نبود به طرف دریا میرفت و نخست سور فینقیان را گوش مالی میداد؟ یا از آنچه قابل اغماز است چشم بپوشد و به سوی جنوب عظیمت کند تا درسی به مصریان بدهد؟ شاید بهتر است نخوست آنهایی را سرکوب کند که بیشتر او را به خشم می آوردند، یعنی یهودیان با شاه مترسکشان. نبو نصر بخشی از سپاه را به محاصری سور فرستاد و در عین حال به این فکر بود که بهترین راه را برای فتح اورشلیم پیدا کند. زیرا که پادشاه بابل بر شاه راه به سر دو راهی ایستاده است تا تفعل زند و تبرها را به هم زده از بتها سوال کند و به جگر مینگرد. هاتفان درباره حمله احتمالی به اورشلیم هشدار دادند اما امونیان و موآبیان یک صدا به او گفتند که خدای یهودیان آنها را به علت گناهانشان ها وانهاده است. پس از آنکه نبو خدای اسرائیل را در خواب دید که میکایل فرشته حامی ابریان را با دست بسته و ناتوان به اونشان نشان داد، تصمیم گرفت به اورشلیم حمله کند. با این حال، پادشاه بابل نگران بود. از آنجا که صلاح میدانست خود در خط مقدم نباشد، مأموریت تسخیر شهر را به بهترین سردارش نبو زرادان سپرد. اهالی اورشلیم که با آمدن مردم اطراف با خوراک و اسلحه تقویت شده بودند و بابلیان را مینگریستند که شهر را محاصره کرده بودند بر آن شدند که تا رسیدن سپاه فرعون مقاومت کنند زیرا همگی خاطره تلخ شکست از سندخاری به آشوری را به یاد داشتند این خاطره در روایات یهودی به جا مانده است که نبوکدنصر درباره عمق ایمان ابریان نیز تردید داشت و در حالی که صفاهیان شهر را محاصره کرده بودند از اقلای اسرائیل یعنی دادگاه عالی قزات درخواست کرد به این سوی دیوار و با او مذاکره کنند قزات به امید آنکه بتوانند شاه بابل را راضی کنند تا از محاصره دست بردارد و تبعیدیان را آزاد کند پیشنهاد او را پذیرفتند دانشمندان قم آشکارا به اردوی نصر رفتند از آنها در نهایت احترامی که در شعن آنها بود استقبال کردند و از آنها خواهش کردند در برابر شاه بنشینند. شاه از آنها خواست که نوشته های مقدس موسا را برای او بخوانند و تفسیر کنند. قضات به میل شاه کلدانیان عمل کردند اما هنگامی که قاریان قانون به فصل سیوم رسیدند که مربوط به سفر اعداد بود نبوک نصر به سختی خشمگین شد. به دستور داد از جای خود برخیزند و به روی زمین بنشینند و سپس فریاد براورد پس این شما بودید که صدقیا را وادار کردید سوگند خود را با منزیر پا گذارد متنی که فوزلا خانده بودند به نظر بابلیان توجیه زیر پا سوگند بود اگر پدر دختر جوانی به فرض پذیرش با عهد و میثاق او مخالف باشد این عهد و سوگند بیمعنی خواهد بود و دختر را وادار نمی کند که به عهد خود وفا کند چون پدرش با آن مخالف است. آیا این دختر جوان اسرارآمیز نماد قوم بنی اسرائیل نبود و آن پدر در واقع خداوند ایشان نبود که دادگاه عالی تجلی اراده او به شمار می رفت؟ اسرائیلی به اورشلیم بازگشتند و محاصره بر گرد شهر تنگتر شد. فرعون هفره نیز می‌خواست به عهد اتحاد خود با یهودیان وفادار بماند. او جاده شمال را در پیش گرفت. سردار کلدانی نبو زرادان بیدرنگ تصمیم گرفت از محاصره اورشلیم دست بردارد و به مساف مصریان برود. این امر اردوی یهودیان را قرق در شادمانی کرد. اکنون که قدرت بابل ناکام مانده بود، یهودیان می توانستند از حسارهای شهر خارج شوند، برای خود آزوقه تهیه کنند و دوباره به زندگی بپردازند. صدقیان نیز مانند ملت خود شادمان بود، اما آیا به راستی مصریان خواهان رسکاری و نجات اورشلیم بودند؟ آیا آنها بدون هیچ هدف دیگری برای دفاع از یهودیان آمده بودند؟ و آیا آنها نبرد مجددو را فراموش کرده بودند که در آن شاه یوشیا قهرمانانه خواسته بود راهیشان را سد کند؟ اگر مصریان کلدانیان را فراری می دادند و اورشلیم را از یوغ بابل آزاد می کردند، قانون خود را به یهودیه تحمیل نمی کردند. آیا مرحله جدیدی از پیکار و مبارزه میان بابلیان و مصریان در پیش بود؟ ارمیا مردی نبود که امیدهای مردم شهر مقدس را در سر بپروراند؟ و خداوند چونین میگوید که خیشتن را فریب ندهید و مگویید که کلدانیان از نزد ما البته خواهند رفت زیرا که نخواهند رفت بلکه اگر تمامی لشگر کلدانیان را که با شما جنگ مینمایند چنان شکست میدادید که از ایشان غیر از مجروح شدگان کسی نمیماند باز هر کدام از ایشان از خیمه خود برخاست این شهر را به آتش میسوزانیدند تا پیامبر برای آنکه به هر امیدی پایان دهد اعلام کرد، ارتش فرعون که به کمک شما آمده بود، به مصر باز می کردد. ارتش بابل هنوز به قزز نرسیده بود که معلوم شد جنگ بزرگی رخ نخواهد داد. مصریان پافشاری نکردند و به پشت مرزهای خود پس نشستند. آیا نجات یهودیان ارزش آن را داشت که مصر مخاطره نبردی بی امان را بپذیرد، تلفات سنگینی دهد و در صورت شکست شاهد هجوم کلدانیان به سرزمین خود شود؟ اکنون سپاهیان نبوزرادان تنها یک هدف در سر داشتند و آن بازگشت به اورشلیم و شکستن هرگونه مقاومت بود. ارمیای نبی به پیشگویی‌های خود در مورد بدبختی ادامه میداد و روحیه‌ی محاصره شدگان را خراب می‌کرد. کسانی که می‌خواستند به هر قیمت مقاومت کنند و فرماندهان ارتش از رفتار پیامبر در برابر شاه صدقیا شکایت کردند. این مرد را باید کشت، زیرا بازوان مردان جنگی ما و تمام ملت را سست می‌گرداند. ارمیا را به دشمنان او تحویل دادند. آنها نیز او را به قعر سیاه چالی پر از گل انداختند اگر خاج که در خدمت شاه بود به کمک او نمی آمد و نجاتش نمیداد، بیگمان از بین می رفت ارمیا که به زحمت از مرگ جسته بود سرزنش های خود را درباره لزوم اطاعت از بابلیان از سر گرفت صدقیا مخفیانه با ارمیا که برای او احترام قایل بود به مشفرت پرداخت و پیامبر در هماهنگی کامل با معزه عمومی خود به او سفارش کرد، اگر حقیقتا نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی، جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد. بلکه تو و اهل خانهت زنده خواهید ماند. شاه یهودیه با سخنان ارمیای نبی متقاعد شد اما قهتی بیداد می کرد. بیماری افراد ضعیف را از پای درآورده بود و پس از آن همه قربانی صدقی دیگر نمی توانست به عقب بازگردد و تسلیم شود محاصره هجده ماه به درازا کشید یهودیان امید خود را از دست داده بودند مصریان از یاری رساندن به آنها چشم پوشیده بودند فنیقیان در سور خود در محاصره شدید قرار داشتند و دیگر اقوام منطقه با آنها دشمن بودند در یازدهمین سال سلطنت صدقیا و چهارمین ماه و نهمین روز رخنی در دیوار شهر ایجاد شد و سرداران پادشاه بابل وارد شهر شدند اورشلیم شکست خورد مقاومت پایان یافت و شهر در اختیار دشمنان قرار گرفت مردان جهانی دیگر و خدمتگزاران خدایان بیگانه به اطراف معبد حوالی کاخ سلطنتی، کوچه ها و خیابان های شهری که بود پرست نبود وارد شدند سکوت بر همه جا حاکم شد یهودیان سرنوشت محتومی یافتند صدقیا از پایتخت خود گریخته بود او همراه با پسران و چند تن از یاران وفادار خود به سوی دره اردن رفت امیدوار بود که در آنجا از چنگ دشمنان بگریزد ولی نبو زرادان امکان آن را داشت که رهبران کسانی را که مغلوب کرده بود دستگیر کند او فراریان را محاصره کرد و بیدرنگ تمام سپاهیان یهود را به ریبله که ستاد فرماندهی پادشاه نبو کدنصر در آنجا قرار داشت فرستاد باز هم یک بار دیگر بابل پادشاه اورشلیم را شکست داده بود باز هم باید شاه دیگری انتخاب و به او اعتماد میشد و شاه جدید باید سوگند وفاداری فاداری ادا باز هم یک بار دیگر باید یک عهد شکن مجازات میشد. نبو کدنسر فرمان داد فرزندان صدقیا را در برابر چشمان پدر به قتل برسانند. سپس دستور داد چشمان شاه مغلوب را از هداقه درآورند. بدین قرار: آخرین پیشگویی یهود، در مورد پسران مشرف به موت او بود شاه مغلوب و نابینا با آگاهی از اینکه پایان تبار طولانی شاهان اسرائیلی چنین است و در حالی که زنجیرها بر گردن و پاهایش سنگینی می کرد راه بابل را در پیش گرفت اورشلیم چه شد نبو کدنصر حس می کرد از قید سوگندی که قبلاً در برابر دادگاه عالی اورشلیم خورده بود تا معبد را ویران نکند رهایی یافته است. او اجازه داد سردارش نبو زرادان خاک معبد را به توبره بکشد، به خزاین آن دست دراز کند، ظرفهای طلای آن را برو باید و معبد آین ابریان را نابود کند. وظیفه به خوبی انجام شد. سردار دستور داد ستونهای برنجی و هر چیز ارزشمند را که در معبد وجود داشت بروآیند. و کلدانیان ستونهای برنجینی که در خانه خداوند بود و پایها و دریاچه برنجینی را که در خانه خداوند بود شکستند و برنج آنها را به بابل بردند و دیگها و خاکاندازها و گلگیرها و قاشق ها و تمامی اسباب برنجینی را که به آنها خدمت میکردند بردند. و مجمرها و کاسه ها یعنی آن آنچرا که از طلا بود و نقره آنچرا که از نقره بود رئیس جلادان برد سرانجام او معبد را به آتش سوزانید و دستور داد قصر سلطنتی را آتش زدند و دیوارهای شهر را ویران کردند سپس نبو زرادان کاهن بزرگ سرایا و سوفنیای کاهن دوم را بازداشت کرد باید کار سلسلی پادشاهان و اخلاف یوشیا و کاست راهبان که هموار شاهان را هدایت و با نام خدای یکتا آنها را وادار به مقاومت می یکسره میکرد. او سه در واضع معبد، یک خاج سرا که فرماندی سپاه بود، پنج مشاور شاه و معاون فرماندی سپاه را با خود برد. همگی به ریبله برده و به فرمان نبو کدنسر کشته شدند، سرانجام سردار نبو زرادان روستاهای اطراف را با خاک یکسان کرد و هرچه از نیروهای زنده کشور یهود باقی مانده بود به چنگ آورد. او فقط به فقیرترین نفرات کشور برای کاشتن مو و کشت مزارع کاری نداشت. با این حال نبو کدنصر می‌خواست اقتدار خود را در یهودیه حفظ کند. او یکی از نوادگان داوود به نام جدلیا را حاکم یهودیه کرد. حکومت بر بقایای خورد شده قومی چنان مغرور کار آسانی نبود. هدف جدلیا یاداوری دعوت‌های ارمیای نبی مبنی بر عدم مقاومت بود. از خدمت به کلدانیان نهراسید، در کشور بمانید و به پادشاه بابل خدمت کنید و آنگاه در صلح به برد. سردار نبو زرادان که هنگام انهدام معبد فضایل اخلاقی و رزمجوی یهودیان را آزموده بود و از نفوظ کاهنان مذهبی بر آنها اطلاع داشت، تصمیم گرفت سرنوشت خاصی برای ارمیای نبی تدارک ببیند. البته پیامبر خداوند ابریان پیوسته به آنها سفارش کرده بود که در مقابل بابلیان مقاومت نکنند و سردار کلدانی باید از این لحاظ به او پاداش میداد. اما نبو زرادان دریافت بود که ارمیا می تواند به آرام کردن یهودیان در تبعید ادامه دهد به شرطی که همراه آنها به بابل برود پس دستور داد ارمیا را بیابند در حالی که بسته به زنجیر بود و در میان تبعیدیان به بابل قرار داشت و به او وعده آزادی داد کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبو زرادان رئیس جلادان او را از رامر رهایی داد و وی را از میان تمام از ایران و یهودا که به بابل جلای وطن میشدند، و او در میان ایشان به زنجیر بسته شده بود برگرفت و رئیس جلادان ارمیا را برگرفته وی را گفت یهوه خدایت این بلا را در این مکان فرموده است و خداوند بر حسب کلام خود این را به وقوع آورده و عمل نموده است زیرا که به خداوند گناه ورزیده و سخن او را گوش نگرفته اید پس این واقعه به شما رسیده است و اینک من امروز تو را از زنجیرهایی که بر دستهای توست رها می کنم پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شد و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی پس میا و بدان که تمامی زمین پیش توست، هر جایی که در نظرت خوش و پسند آید که بروی، به آنجا برو. از تبعید امتنا ورزید و ترجیح داد نزد جدلیا بماند. شاهزاده منتخب نبو تازه بر تخت داوود مستقر شده بود که خبر شد توطعه هایی بر علیه او در جریان است. او نمی‌خواست از خود دفاع کند چنان که گویی از سرنوشت خود آگاه بود. هفت ماه پس از تاجگزاری او مردی از خون شاهی به نام اسماعیل همراه با ده مقام عالی رتبه جانشین شاهان یهودیه را به قتل رساند. دیگر راه گریزی وجود نداشت. مردم به جز فرار از این صحنه‌های بدبختی راه چاره‌ای نمی‌دیدند. یهودیان اورشلیم ویرانه را ترک کردند آنها از بیم آنکه مبادا برای همیشه رابطشان با خدا گزسته شود ارمیای نبی و دوست وفادار او باروخ را مجبور کردند همراه آنها از طریق بیابان به طرف جنوب بیایند تبعیدیان داوطلب راه مصر را در پیش گرفتند گام های آنها گام افراد مطمئنی که به سوی سرزمین رستگاری می نبود. بلکه آهسته می رفتند چنان که گویی در جاده سرنوشت تردید داشتند. آنها آرام و آهسته می رفتند در حالی که سپاهیان نبو بیابانها و دشتها را در جستجوی آنها در درمی نوردیدند. به دین ترتیب 745 نفر از آنها به چنگ سپاه نبو افتادند و به بابل تبعید شدند. آیا یهودیان برای همیشه وطن شوربخت خود را در بیابان پهناور از دست داده بودند؟ نبو کد نصر بنده من در کلده با تبعیدیان مانند دشمنان مغلوب رفتار نشد آزادی محدودی به ایشان عطا شد و خیلی زود توانستند متشکل شوند البته نمانند شهروندان آزاد، بلكه مانند مهاجرانی تحقیر شده بدون آنکه متحمل آزار شدیدی بشوند. محلی در 50 کیلومتری بابل به سوی جنوب شرقی برای اسکان ایشان در نظر گرفته شد. نهری طویل به نام خابور که یکی از شاخه‌های رود فرات بود از منطقه عبور می‌کرد. یهودیان در روستاهایی با نامهای زیر مستقر شدند. ملاه، تل هرشه که ایما تبعیدیان در شمار نخبگان اشرافی، نظامی و سنتی یهودیه بودند و عادت به زندگی در شهر مقدس داشتند که بازدید کنندگان خارجی بسیاری به آنجا می رفتند و آمیزش اندیشه ها به زندگی هر کانون خانوادگی روح می بخشید. بنابراین به رقم حاصلخیزی فوقلاده زمین که فقط نیاز به آبیاری داشتند، این مردان و زنان از کار کشاورزی و زندگی در مزاره چندان خوششان نمی‌آمد. در نزدیکی روستاهایی که یهودیان مستقر شده بودند، شهر بزرگ و زیبای نیپور قرار داشت. نوو نصر در نظر داشت عظمت این شهر را به آن بازگرداند و این کار را اگر به گفت با خراب کردن معبد خدای بعل انجام داده بود. بنابر این، گونه خلع خداشناسی بر شهر حاکم بود. نیپور را یکی از باستانی ترین شهرهای جهان می دانستند. شهر اصلی و کانون سومریان که پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح تأسیس شده بود و تمام صفات شهری مشابه اورشلیم را چنان که در قلب یهودیان بود داشت. یهودیان که میان بابل و نیپور مستقر شده بودند و می توانستند بدون مشکل خاصی به این دو شهر بروند برای قدرت و عظمت نظامی کمتر نگران بودند تا گذشته نزدیک خود. آنها ایمان خود را به سرزمین اورشلیم حفظ کرده و حتی تبدیل به رقبای ممتاز قدرت‌های کلده شده بودند. برخورد تاریخی شگفت این بود که فرزندان قلمرو یهودی در نیپور با بعضی از فرزندان سامری روبرو شدند. اینان نیز در سال 721 سرنوشتی مشابه سرنوشت اهالی یهودیه یافته و بیشتر آنها به بین و نهرین یا شهر ری در نزدیکی دریای خزر و نیز به نیپور تبعید شده بودند. اغلب آنها در فرایند ادغام یهودیان تازه رسیده در حیات اجتماعی و اقتصادی موقعیت ممتازی کسب کرده بودند. هر دو گروه پیرو موسی بودند با آنکه از دو قلمرو رقیب و دشمن یکدیگر محسوب میشدند و از آنجا که از وطنهای خود دور افتاده بودند اکنون متوجه میشدند که در پراکندگی خود ریشه های مشترکی دارند و روند آشتی تاریخی میانشان پیشرفت میکرد. با وجود این اسرائیلیان متفاوت با اهالی یهودیه رویایی فوقالعاده از اورشلیم در سر نداشتند تا دوام وابستگی خود به خداوند را حفظ کنند. وانگهی تعداد زیادی از اسرائیلیان در گستره آسیای پهناور پراکنده و گم شده بودند. زیرا از زمان سقوط سامری قبایل اسرائیلی شروع به حرکتی فرساینده به سوی شرق کرده بودند که آنها را از فلات ایران و های افغانستان گرفته تا کرانه‌های رود سند و حتی فراسوی آن تا کشور چین کشانده بود. آنهایی که در بابل مستقر شده بودند نمیخواستند از آنجا دورتر بروند و رسیدن پیروان دیگر ابراهیم برای آنها به رغم بدبختیشان نشانه ای از تولدی جدید و نوعی نوزایی بود در چنین فضایی هزقیال پیشگوی های ارمیا را از سر گرفت مردم را تشویق می کرد جویای همزیستی با کلدانیان باشند و اندیشه شورش را کنار بگذارند زیرا اورشلیم دوباره ساخته خواهد شد هزقیال با یادآوری شاه صدقیا نماد بیفایدگی مقاومت در برابر کلدانیان از زبان خداوند می گفت سوگند مراکه او خارش مرده و عهد مراکه شکسته است بنابراین ابریان باید به این مشیت خداوندی که آنها را زیر یوغ بابلیان کشنده بود گردن می نهادند اما این و از ابدی نبود و پیامبر از زبان خداوند اعلام میکرد کرد که و چون ایشان را از میان امتها برگردانم و ایشان را از سرزمین دشمنانشان جمع نمایم آنگاه در نظر امتهای بسیار در ایشان تقدیس خواهم شد و خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم از آن رو که من ایشان را در میان امت‌ها جلای وطن ساختم و ایشان را به زمین خودشان جمع کردم و بار دیگر کسی را از ایشان در آنجا باقی نخواهم گذاشت بدین ترتیب اهالی یهودیه از همان آغاز تبعید به بابل میان وضع خود و اجدادشان در مصر تفاوت قائل شدند فرزندان ابراهیم در سرزمین کلدانیان برده نبودند بلکه انسانهایی جابجا شده بودند پیامبران ایشان هرگز مصریان را دوست نداشتند و همواره افراد آشوری و بابلی را بر آنها ترجیح می‌دادند زیرا اینان به رغم سنگدلی برای یهودیان در میدان نبرد احترام قائل بودند یهودیان در سواحل نهر خابور با وجود دوری از معبد خیش می توانستند اعتقادات خود را حفظ کنند. هزقیال در همین تبعیدگاه بود که الهام و رویای عرابی آسمانی را دریافت کرده بود و این دلیل انکار ناپذیری بر حضور خداوند در میان مردم خود بود. با این حال پرسش عجیبی در ذهن آنها وجود داشت. اگر پیامبران بر ضرورت پذیرش سرنوشت یهودیان و اسرائیلیان تاکید می کردند و شورش را بیفایده می میدانستند، ابریان نباید به این نتیجه می رسیدند که کد نصر نه یک ستمگر بلکه فرستاده ای است که با آنها هشدار میدهد. نبوکود نصر که نام او در چرخش شوم شش هجایی خود هم به معنای فاتح هم سازنده و هم جباره است آیا همان تبرک شده ای نبود که انتظارش را داشتند مگر ارمیای نبی نگفته بود خداوند میگوید و الان من تمامی این زمین ها را به دست بنده خود نبو کد نصر پادشاه بابل دادم تا او را بندگی نمایند و تمامی امت ها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتی که نوبت زمین او نیز برسد پس امتهای بسیار و پادشاهان عظیم او را بنده خود خواهند ساخت و واقع خواهد شد که هر امتی و مملکتی که نبو پادشاه بابل را خدمت ننمایند و گردن خیش را زیر یوق پادشاه بابل نگذارند خداوند میگوید که آن امت را به شمشیر و قهد و وبا سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او حلاک کرده باشم اگر چنین بود؟ پس این همه تبعید، شکنجه و مبارز جویی با مشیت الهی چگونه توضیح داده می شد؟ به خصوص تجاوز به معبد اورشلیم و انهدام محلی که نام خداوند نجات دهنده قوم از مصر آن بود، چگونه توجیه و تبیین می روحانیان یهودی در برابر این پرسش ها سکوت می کردند. طبعیدیان رفته رفته احساس کردند که بدبختی آنها موقتی است و حتی اگر طی سالها وز آنها در بابل بهبود یابد هیچ چیز فراموش کردن اورشلیم را توجیه نمی کند. نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم چون صحیون را به یاد آوردیم. بربدهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود. زیر آنانی که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند که یکی از سرودهای صحیون را برای ما بسرایید چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخانیم؟ اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم آنگاه دست راست مرا فراموش کند اگر تو را به یاد نیاورم آنگاه زبانم به کامم بچسبد اگر اورشلیم را بر همه شادمانی خود ترجیح ندهم ای خداوند روز اورشلیم را برای بنی ادم به یاد آور در دربار پادشاه بابل تسخیر اورشلیم پیروزی بر یهودیان و تبعید آنها به نیپور حادثه چندان مهمی تلقی نمیشد، بلکه پیروزی بر اقوام کوچک آسیا دانسته میشد. یگان افتخار برای نبو شرکت او در پیروزی غیرعادی بر آشور و انهدام نینوا بود. با وجود این در سال 573 ساکنان سور این فنقیان شکست ناپذیر پس از 13 سال محاصره مغلوب سپاهیان بابل شدند. نبو کدنسر بی رحمان شاه هیرام پادشاه سور را که در واقع ناپدری یعنی همسر مادرش بود به قتل رسانید. با این حال این پیروزی نیز حادثه چندان مهمی تلقی نمی‌شد. شد. در درجه نخست به تقویت و تحکیم قدرت معنوی بابل و گسترش تمدنی علاقه داشت که خود وارث آن بود. دانیال جوان در میان اطرافیان بیواستی شاه بزرگ شده و در نزد شاه و نخبگان بابلی آوازهی به آورده بود. دانیال خوابهای نبوکدنسر را تعبیر می کرد و از این راه نفوذی بسیار واقعی بر شاه یافته بود. روایت عبرانی گزارش می دهد که سرور بابل روزی به این فکر افتاد ستن از دوستان دانیال یعنی هننیا، میشائیل و ازریا خدمتگزاران جوان دربار را که در اشغال اولیه ارچلین به گروگانی آورده بود وادار به پرستش بود خدای بابل کند. و چون آنها امتناع ورزیدند، نبو نصر دستور داد ایشان را در تنور بزرگ سوزانی بیاندازند. ابریان از قرنها پیش معتقد بودند پردهی نامرئی این سه جوان را از آتش حرارت و دود در امان نگه داشته و آنها در های سوزان از بین نرفتند. نبوکدنصر در برابر چنین معجزه‌ای به پرستش خدای اسرائیل پرداخت و با چنان حیجانی در نیایش غرق شد که خداوند فرشتهای نازل کرد تا پادشاه بابل را در جهش روحی خود متوقف کند مبادا او نیز در زهد و پارسایی به مقام شاه داوود برسد از نظر یهودیان آن زمان و کسانی که سنت شفاهی یهودیت را تدوین کرده اند، نبو شخصیتی معماگونه و عجیب بود. نوعی ابزار کور خداوند و آمیخته از انگیزه های ویرانگرانه و اطاعتهای ناآگاهانه از طرحهایی که از وجود او فراتر می‌رفت. با این حال، سیاست اقتضا می کرد، فرمانهای او اجرا شود، در سال 568 نبو کدنسر احساس آمادگی کرد تا به رؤیای اجداد خود و طرح بزرگ زمان پادشاهیش تحقق بخشد. یعنی به مصر حمله و آن را تصرف کند. اما شاه بابل رو به پیری می رفت. سی سال از سلطنت او میگذشت و تازه مگر نهان که به همه هدفهای خود رسیده بود. سقوط سور به او امکان داده بود تمام شرق را آرام کند و زیر سلطه خود درآورد. مصر به خودی خود قدرت نیرومندی نبود. سلسله حاکم با نوعی مزحکه و به سود شورشی ویرانگر بر کنار و فردی بی اهمیت به شاهی برگزیده شده بود. شاید بهتر بود چنین دشمن ناچیزی نادیده گرفته شود. با وجود این، نصر ماجرای عقب نشینی خود از پلوزیوم را به یاد میآورد. آن زمان او سردار بود و فرا خوانده شده بود تا جانشین پدر درخشانش نبوپلصر شود. ناچار بود از سریعترین راه ممکن خود را به بابل برساند تا در آنجا اسای شاهی را دریافت کند سال 604 بود و اکنون سالها از آن جریان می‌گذشت سرانجام تهاجم آمیزی صورت گرفت که پیروزی راستین محسوب نمیشد. فرعون آماسیس در این نبرد البته مغلوب شد ولی از پای در نیامد. نبو نصر نیز تا در ری نیل بالا نرفت تا به هبشه برسد. بنابراین، فرمان روای بابل نتوانست پیروزی های و آشوربانیپال پال در یک قرن پیش را تجدید کند. با وجود این احساس می کرد به طور قطعی از قدرت مصر کاسته و در امپراتوری پهناور خود آرامش برقرار کرده است. امپراتوری او از یک سر به ماد در شمال و به برکت پیروزی هایش در کلیکیه به کرانه های مدیترانه می رسید و تا سرحدات مصر و خلیج فارس گسترده بود ابزار دست خدایان نبو برای نقطه پایان نهادن به عظمت دستاوردهای خویش خیش متوجه شهر بابل شد پیش رفتهای اقتصادی در زمان سلطنت او در تمام مناطق زیر سلطه کلدانیان او را برانگیخته بود تا به پایتخت خود بپردازد. جنگل‌های چوب صدر لبنان منابع سرشاری برای ساختن معابد و کاخ‌ها بودند. نبوکدنصر با قرور نقش سازندگی خود را یادآور می‌شد. من صلح را در میان تمام اقوام و ملل زیر دست خود حفظ کردم و انباری عظیم از قله فراهم آوردم. سپس به ساختن کاخ محل سکونت سلطنتی اقوام نیرومند سرای شادی و خوشبختی برای انبوه قوایل پرداختم این کاخ ها را روی پیهای قدیمی تا جهان زیرین با قیر و آجر و پیهای جدید بنا کردم فرمان دادم صدرهای بزرگ از جنگل های عالی لبنان بیاورند تا سقف ها را با آنها بسازند و اطراف کاخ را دیواری بزرگ کشیدم در این کاخ بود که تصمیمات سلطنتی خود و فرمانهای امپراتوری را دیکته می کردم. در بابل هیچ کاخ دیگری که شایسته اقامت پادشاهی چون من باشد وجود نداشت. نبو نصر همچنین خیابان اصلی پایتخت را به شاهراه بزرگی تبدیل کرد که دو دیوار با زخامت هفت متر آن را می کرد. این دیوارها با آجر لعابدار به رنگ آبی سیر تزین شده بودند و در هر طرف آنها نقش شست شیر وجود داشت. این شیرها چنان بودند که گویی با پوزه گشوده و دم پایین راه را همراهی می کردند. بر درهای بزرگ کاخ ها آزین های گل سرخی به رنگ سفید بر زمینه سبز سیر، گاوهای نر وحشی با جامه آبی و اجدعاهای خاکستری نقش شده بود، نبو نصر نقش خود را در این معماری سلطنتی چون این توصیف می کند. من اساسیه معبد از را با طلای زریف کشتی مردوک را با سنگهای گرانبها زرین و سیمین آراستم. چنان بود که گویی ستارگانی در آسمان بودند. برای ساختن معبد قلبم مرا راهنمایی کرد و خود نقشش را در فکر تحریزی کردم. نبو کدنسر سخنان پدر شاه نبو را به یاد می آورد که او را وادار کرده بود در کنار بنایان به کار بپردازد. دستور دادم تصویر من را در حالی که سبدی از آجر حمل میکنم بنگارند. نبو کدنسر پسر ارشد و محبوب قلب من سفال و فدیهای شراب و روغن حمل میکرد. با آنکه بابل بیش از 50 معبد نداشت که به خدایان متعدد وقف شده بود، سنت معماری درازی داشت. ساختن ها به قرور بنیادی کسانی که می‌خواستند مکان خدایان را فتح کنند پاسخ میداد، اما در عین حال فروتنانه دسترسی آنها را به زمین آسان می‌کرد. در واقع بنای ها نمایانگر حراس عمیق بابلیان از آسمان بود. از اینکه سرنوشت آنها در دست ستارگان یا نبردهای کیهانی باشد می ترسیدند روایت سامی طرح برج بابل را جنونی انسانی معرفی می کند اما به نظر می رسد این حرکت نومیدانه ملهم از ادراکی کیهان شناختی در مورد سرنوشت انسان بوده است آیا برج بابل درخواست یاری از خدایان نبود؟ ای دست که به سوی آسمان دراز شده بود؟ همچنین هدف از کیفر توصیف شده در همین روایت اختلاط زبانها ها که هماهنگی کارها را ناممکن می ساخت تاکید بر بیهودگی کار نبود بلکه میخواست اهمیت ارتباط میان انسانها را نشان دهد که گویی به نحوی استعاره پیش از ساختن برج فقط یک ملت را تشکیل میدادند وانگهی سامیان از این فراتر رفتند آنها معتقد بودند کلمه بابل چنان که ریش شناسی کلدانی ثابت می کند به معنای دروازه بالا نیست بلکه چنان که ریشه ابری نشان می به معنای اختلاط است اختلاط خدایان، اختلاط زبانها، اختلاط ازهان، اختلاط سیاستها از این رو نبو ابعاد عباد به شهر خود بخشید او پل بزرگی ساخت که دو ساحل فرات را به هم میپیوست و بر روی آن شهر بابل گسترده بود. آیا بر روی این دو ساحل نبود که سومریان خط را اختراع کرده بودند و شاه هشتاد رابی 282 قانونی را تدوین کرد که قواعد جامعه را پیریزی میکرد و قرار بود روابط انسانها را میان خود و با مقامات قدرتمند اداره کند؟ این شهر و کشوری که آن را احاطه کرده بود با اختراع خط و تدوین قوانین گنجینه فوق‌العاده هوش و اندیشه بشری بود. نصر در پایان زندگی خود میتوانست به تأمل درباره عجیبترین شهرها بپردازد، شهری که ارمیای نبی برای مقایسه آن با جام زرینی در دست خداوند که تمام زمین را مست می‌کرد، تردید نکرد. روایت شفاهی ابریان درباره پایان سلطنت پادشاه بابل گزارش می‌دهد که دانیال نبی شاهزاده یهودیه می کوشید نگرانی‌های شاه و سرور شرق را کاهش دهد. نظر که گاه از سقوط امپراتوری خود دچار حراس می‌شد، حتی آرزوهای مبهم خود را با او در میان گذاشت. می‌خواست خدایان بزرگ را با هم برابر کند. ابری را برگیرد، از آن تاجی برای الهه خاص خیش بسازد و تصور می کرد روزی به جانوری با سر گاو و بدن شیر تبدیل خواهد شد نیز گفته می شود که او هفت سال در میان حیوانات وحشی در بیابانهای اطراف پایتخت تخت به سر برد یا بران شد که تمام اختیارات خیش را به دانیال تفویز کند که او نپذیرفت روایت کلدانیان نیز حکایت از آن دارد که نبو با نزدیک شدن زمان مرگش به بام قصر خود رفت و پایان نزدیک امپراتوری را برای بابلیان پیشگویی کرد. حتی مطلب عجیبی ذکر کرد به این مضمون. قاطری پارسی خواهد آمد و به کمک خدایان خود شما بندگی را بر شما تحمیل خواهد کرد. بابلیان در مورد شاه خود به رغم خصلت عجیب و غریب و پیشبینی ناپذیر او ستایش هایی به خدای مردوک ابلاغ کردند. سخن او پایدار است. فرمان او تغییر نخواهد کرد. گفته ای را که از زبانش براید هیچ خدایی نقض نمی کند وقتی خشمگین شود هیچ خدایی در برابر خشم او تاب نمی‌آورد. در حقیقت نبوکدنصر خشمگین و سختگیر بود اما لجوج نبود او همونقدر که عصبانی میشد به بخشش و کرم نیز میپرداخت او با خودنمایی ولی خدا خداپرستانه میدانست چگونه در برابر خدایان اظهار فروتنی کند و در عین حال میتوانست خود را به شدت با عاطفه نشان دهد به خاطر عشق به همسرش باغهای معلق بابل را ساخت با وجود این به مناسبت های متعدد، سنگدلی و بیرحمی زیادی از خود نشان داد. چنانکه فرزندان صدقیا را در برابر چشم پدر قتل عام و آخرین شاهان یهودیه را به زندانی طولانی محکوم کرد. نبو کد کمی قبل از مرگ خود با دغدغه اینکه به نسل های آینده معنای واقعی سلطنت خود را بشناساند، اعلامیهی به شکل وسیعتنامه به کاتب خود دیکته کرد. من نبوکدنصر هستم، پادشاه بابل، با شوکت بسیار عظیم، تابع خدای مردوک، پرستنده خدای نبو، کسی که معجزات اسرارآمیز به ظهور میرساند، بنا به این, این الوه و احترام به بزرگی او. کسی که به افتخار بابل و بورسیپا بسی افزوده است، خدمتگزار خدایان، خردمندی که خود را وقف قدرت آنها کرده است، فرزند ارشد نبوپلصر، شاه بابل. من من به احترام خدا کشورهای دوردست و کوههای بلند را از دریای فوقانی مدیترانه تا دریای تحتانی خلیج فارس تسخیر کردم آنها از راه اطاعت و احساس انقیاد سرنپیچیدند. آنها هم شرایط شکست را پذیرفتند و هم اجبار پرداخت خراج را من راه های دسترسی ناپذیر را به جادههای خوب تبدیل کردم من بدکاران را کیفر دادم من بابل زوال ناپذیر را در اختیار دارم آنچه هیچ یک از شاهان پدران من پیش از من نکرده بودند من نصر هستم پادشاه بابل آن کسی که مردوک خدای بزرگ برای افتخار شهر خیش بابل تعیین کرده است من اویل مردوک پسر شاه متوفا در فضایی از استراب درباره آینده زمام امور را به دست گرفت عجیب آنکه پادشاه جدید بابل چنان که گویی میخواست با خدای بیگانه آشتی کند با مدارای شاهانه آزادی کاملی برای یهویاکین پادشاه سابق یهودیه قایل شد از سال سی و هفتم اسیری یهویاکین پادشاه یهودا واقع شد که اویل مردوک پادشاه بابل در سالی که پادشاه شد سر یهویاکین پادشاه یهودا را از زندان برافراشت و با او سخنان دلاویز گفت و کرسی او را بالاتر از کرسیهای سایر پادشاهانی که با او در بابل بودند گذاشت و لباس زندانی او را تبدیل نمود و او در تمامی روزهای عمرش همیشه در حضور وینان میخورد و برای معیشت او وظیفه دایمی یعنی قسمت هر روز در روزش در تمامی ایام عمرش از جانب پادشاه به او داده میشد میگفتند گفتند که اویل مردوک حتی به این فکر افتاد که شاهزاده با فضیلت شاه سابق یهویاکین را در یهودیه به تخت بنشاند اما اورشلیم آزادیش را باز نیافت و همچنان محروم از معبد خیش بود و در معرض حجوم قارتگران و حیوانات وحشی قرار داشت در حالی که چند زارع یهودی که به کوهای یهودیه پناه برده و قادر به حفظ شهر نبودند شاهد این حوادث بودند. نینوا پایتخت بزرگ آشوریان نیز به ویرانگران واگذاشته شده بود. اورشلیم پایتخت یهودیان نیز دیگر نقش خانه خدا را نداشت. در عوض بابل در عظمت خود می درخشید. نبو کد فاتح و وارث آشوریان قدرتی بی سابقه به کلدانیان بخشیده بود. بدون شک او هنگام مرگ به این امر آگاهی داشت که سلسله شاهان متوالی شرق در اراده خود به قدرت وجوه مشترکی دارند.